اللهم صلی اللہ محمد و محمد عوضو اللہ من الشیطان لین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و عدو اعترام دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم از اینکه باردگی در خدمتون هستم خدا رو شوا خب من یه سری مباحث و جلسه قبل ارز کردم نکاتی ازش مونده بود خاطرم هست سری تصاویر رو داد خدمتون نشون میدادم اونا بلاخره پیداش کرد روی اون سلام روی اونها من یه سری توضیحات میدم خدمتون رو یه بحثیرم باز میکنم تا زیادم نمیتونم دقیق ترش بپردازم پردازم. نه اینجا جاشه و نه خدمت شما عزیزان که شما بزرگواران بارن شاید حوصلهتون قد بکشه و بخواد مثلا وقت بذارید برام چیکارم اهمیت داره. میخواند نگاه اینا رو عمیق به دست برید شما. ما جلسه قبل در مورد اعتقاد به بحث دشمن دشمنو بررسی کردیم، دشمنو تعریف کردیم و علا خصوص روی شیطان صحبت کردیم. انات داشته باشید شهید آوینی جمله خیلی معروف و قشنگ داره حالا قریب به مضمون اینکه فرهنگ غرب نهایتاً با نفس اماره شیطانی یه حرف میزنه. چرا که از درون انسان رو تسخیر میکنه این عبارت عبارت خیلی دقیق و جالبیه من به این رسیده بودم و بعد این جمله آوینی رو دیدم برای خودم خیلی جالب بود یعنی اصلاً فرق نمیکنه که شما مستقیم به ابلیس گوش بدید یا به فرهنگ غرب تن بدید هر دو تا یه حرف می‌زنن اصالت اصالت نفس اصالت اصالت خواست هاست اصالت اصالت همون حرفی که آلیس کرولی می‌زنه پدر اینا میگه چنان کن آنچه خواهی کل شریعت بوبد میگه هر چی انجام بده به کسی هیچ ربطی نداره در حالی که قران و اسلام دقیقاً میگه جلوی نفسات بگیری نفس بیخود میکنه هر چیزی رو که خاص بخواد اینو یه وجدیه آیه در تو قرآن که خیلی جالبه یه و اما من خاف مقامه ربه و نهى النفس ان الهوا فان الجنه هي المواء خیلی آیه زیبایه میگه که کسی به اون معواش میشه جنت معوا خونش هستن مال خودشه کسی میشه جنت که نفس خودش رو از هوا باز داره ببینین نمیگه و نهن نفس اندنبه. نمیگه نفس خوش داره گناه نگه داره اشتباه نکنی. میگه انال هوا خیلی وقتا میسید چیزا میخواییم حتی گناه هم نیست میگه نفست نمید بخواد. بیتونی جلاشو بگیری او نباید به شما دستور بده عقل حاکم این کال بوده عقل نه نفس شما این کسایی هم که به جاهایی رسن جلو نفسشون گفته نه اینکه فقط گناه نکنه نه خیر بالاتر آقا طرف میخواستی لیوان آب بخوره آب یخ بخوره هندونه میخواسته بخوره نمک میرخته روش یعنی چی؟ نفس من درخواست نکنه در مرحله جلوتر از ترک گناه دارن میجنگن با شیطان در کدام مرحله در مرحله خاص ها اصلا شیطون میاد خاص برای شما به وجود میاره اگه شما چیزی نخواید هیچ وقت در پی حل اون نمیرید رسانه امروز کارش اینه دیگه را یه بحثی یه جلسه هم رو صحبت کنیم که رسانه چه جوری در ما خاص به وجود میاره از چه روش هایی استفاده میکن چطور ممکنه شما یه فیلمی رو ببینید یا مستندی رو یا تیزر تبلیغاتی ببینید و میل پیدا کنید به خرید چیزی. چطور کمپانی‌ها و دراسهای اقتصادی اومدن پشت سر اینا وایستادن. پشت سر تولید فیلم. که شما فلان فیلم بساز که نیاز به خرید فلان کالا رو به وجود بیاره. نیازهای جنسی بر مبلای فلان چهره رو به وجود بیاره. ماها داریم دائم کنترل میشیم. دائم در ما نیازهایی به وجود میاد. قرآن میگه کسی به... اون مقام خوف از خدا میرسه و جنت میرسه جوری که کسی بتونه اصلا جلو نفسش رو بگیره نه که جلو گناه رو بگیره شما شما زمانی جلو گناه ها بگیری که جلو نفستون رو شیطان اساسا شما یه جلسه در مورد روشهای حمله شیطون و راهو کار مقابله باش صحبت می‌کنم برانه قرآن و روایات شیطان اساسا به ذات با انسانی که بند و بیلی بهش آویزون باشه اینطوری کار دستگیره ها رو ما بهش میدیم بخاطرن اگر شما سر باشی تنابی بید آویزون نباشه هیچ کار نمیتونه بکن الا عباد و کمن منهم ال مخلصین میگه من با بنده هات که خالصن و پاکن و من دست میکشم سر میخوره اصلا نمیتونم کاری کنم اصلا و ابدا حتی اینقدر اینی که میگم دور از دست رس و خود شماها میتونید خدا را شاهد باش اصلا دور از دست رس نیست یه سخنرانی کردم چگونه گناه نکنیم شیش جلسه هست وقت گردید و نه تو اینترنت دانلود کنید سخنونی هیایتیه به درتون میخوره برای کسایی که میخوان یه رویی رو یک نردبونی رو برن از یه مرحله به مرحله دیگه برسن تو بحث اخلاق خیلی به درد میخوره توی اونجا عرض میکنم که اصلا شدنیه رسیدنیه انقدر خوب میشید که شیطان دیگه نمی‌تونه شما رو به گناه وادار کنه بین دوتا تا خیر مخیرتون میکنه میگه بیاین کار خوبه که ثواب کم‌تر داره انجام بده اصلا دیگه تو گناه شما رو ببره مخلص می‌شودم شدنیه اینا چیزایی نیست شعاری نیست آرمانی نیست شدنی فلیزا اسمت اکتسابی ما داریم مثلا در دا میتونه برسه این از اون بحث در مورد خود این در واقع شیطان صحبت کمتر فرهنگهای فرهنگ های مختلف علل خصوص اون چیزی ما باش درگیریم امروز همین بین و و خاورمیانه و مصر و یونان و اروپا و نواتن ایران بوده اخیرا این مدل شرقیش هم داره باب میشه خب اما کماکان مدل شرقی یک فقط یه دونه خدمت شما عرض بکنم یه مدل کپی برداری شده از کابالای یهودو یه بازم. شما میبینید که اشتباه نکنم جیمز کمرون در مورد آواتار یه حرف خیلی قشنگی میزنه میگه آواتار همون بودیسمه منطقه از فیلتر کابالا رد شده اصلا بودیسم و یه حرف میزنن برای همینه شما میبینید اینو حتی دالای لاما بسیار بسیار دفاع میکنن یعنی حرفشون یکیه بسیاری از این فرقه هایی که تو کشور خودم امروز فعالیت میکنن در مبنا با کابالا حرف یکسان دارن گفتیم که در یهود متاسفانه در اثر تحریفاتی که به وجود اومد آروم آروم شیطان چی شد؟ مقدس شد و خدا لافزن شد اینندی در تورات براتون خوندم که جز این هیچ در نمید. خدا تفرقه انداخته بینه بندهاش خدا داره جنگ میدنازه و انسان ها اگر به اتحاط برسن به درخت دوم برسن خدا رو میکشن پایین خدا برای اینکه می میترسید درخت دوم برد بالای عبرها که این الگوی بسیاری از فیلم ها شده که اصلا این درخت زندگی تو خیلی فیلم ها دیده میشه و ما میتونیم به درخت زندگی برسیم که نکته هم عرض کردم از طریق به خیال رفتن به خلسه رفتن بس دادن زمان که تو خواب و این بحثا تو ها و سریالشون دارن نشونن مثل فرینچ میشه مثل اینسپشن اینا شما میتونید اون جاودانگی عمر هزاران ساله برسید یاد دارن بس و اون پیامبرانی که ما میتونیم از طریق اون به این درخت جاودانگی برسیم جن که عبارتی هم که استفاده میکنن به جای جن جین میگن یا ترکای ما میگن جین بعد خدمت شما عرض بکنم که دیمن الف شما اگر توی اربا بلقا بود اربا بلقا بود یه قسمتی دارن اینجا میرسن توی دریاچه ای میخوان رد بشن میرسن به بنبست بعد میگه دوست به زبان الفی این اسم رمزی که قار براشون باز بشه خیلی واضحه یعنی من نمیدونم دیگه چه جوری بدبخت بود میگه سن الفی نه میگه تو باید اسم رمز رو به زبان جنیان بگیت باز بشه اونم دوسته تا راه بر شما باز بشه این حالا من رو نماده اصلا بنا ندارم بحث بکنم اون سخنانه قبلا کردیم حالا بریدون 4 سال پیش بوده روی این برجی که در واقع صحبت میکردم این مبنا اینا شد که این نمادی از خدای که شمشیر رعد و برقو به دست گرفته و انسانهایی که میخوان به سمت بالا آسمان برن و بالای ابرا خدا خودش دفاع میکنه میزنه کنا بیفتن پایین و نهایتاً با صاعقه برج بابلو چیکار میکنه خراب میکنه بابل یعنی باب ایل ایل یعنی خدا باب یعنی در یعنی در به رسیدن به خدا و بین انسان ها جنگ ناخته ویسته داره نگاه می کنه. این خداست این فرش داره این کار انجام می بعد این برج بابلی که نصف به کارمونده یعنی رسیده تو بالا ابرا که نمادی شد بر اینا برج نیمه کار از نرسیدن انسان به سقوط خدا و روزی که این برج کامل بشه یعنی ما انسان خدا رو پایین میکشیم. و برج نیمه کاره یک اقدس یک ادیپ تو گلوی و شرگیر کرده برای جنگ با خدا ببین این چیزایی بودی که 3000 سال پیش تو فرهنگ اینا شکل میگیره آرام آرام میتونن اینو توی غرب تو دنیا با ابزار به جرأت میگم رسانه مثلا 90 درصد در رسانه این کار کرده میتونن بیان چیکار کنن اینو جا بنازن و فرهنگ عمومی دنیا بشه از طریق فرهنگ قرب یعنی غرب بستری شد برای اینا چونم باز به وقتش جلوتر بریم در مورد شگिरीی مدرنیته توی غرب خورده توضیح بدیم اونجا عرض خواهم کرد اینم پارلمان اروپا که عرض می‌کردم که اتحادیه اروپا یعنی خدا بین ما تفرقه می خواست به بنازه ما دوباره متحد شدیم و همین ساختمان نیمه تمام نمادی از دین ستیزی و خدا ستیزی اگر شما می‌بینید در این ساختمان هم جنس بازی تصدیق می‌شه اینا تعجب کنید این اومده برای جنگ با خدا. روی بحث همجنس بازی هم خیلی خیلی زوم باشید. یعنی روی این نکته روی حالا اونجایی که اونها گی و لزبینا من بسیار بسیار من تاکید دارم. و یکی از شاه کلیده های ایناست که هر جا رو می‌خوان فتح بکنن روی این مطلب دست می‌ذارن. باید خط قرمزی بسیار جدی باشه بر زدنش. فقط در همین حد آیه قرآنشو براتون میگم این که خداوند متعال وقتی یک جا فقط و فقط یک جا به جان پیانبر قسم میخوره یعنی شخص اول آفرینش قطب عالم امکانه اشرف مخلوقاته خدا دوسش داره وقتی خدا به موسی میگه و سنعت و کل نفسی ببین جای پیامبر چیه که او بهترین پیانبره خاتم انبیاس چطور میتونم خدا میگه لعمرک به جان توی پیغمبر قسم قوم لوط اینجوری نهایت تاکید روی این اق... روی این ها من شروع کردم بحث کردن بحثای امروز روی اقوام پیامبران قوم نوح انجام دادم هم میخوام انجام بدم قوم ساله و قوم لوت و قوم شعیب با اینا تو راه قوم نوح حتما گوش کن. اسمش از کشتی نو تا کشتی حسینه خیلی به درتون میخوره تا ببینید اصلا تو ماجرای کشتی نو قوم نوح ماجرای ظهور امام زمان داره تبیین میشه در قران بعدش بیشتر برسه ای این مبنا قرار میگیره شما حتی ببینید اینقدر اگه خاطرتون باشه جلسه قبل گیرم رو تورات داشتم صحبت می‌کردم میگفت خدا برای که بتونه جلوی آدم ها رو بگیره چیکار کرد یکی دو چی بود اصلا بگید زبان‌هاشون مختلف نگاه کنید چی میگه شعار اینا نگاه چی بوده اروپا منی تنگوز وان وایس میگه زبان هامون مختلفه اما حرفمون یکی تو زبانه ها رو متفاوت کرده اما محتوا یه چیزه ما هممون یه چیز می‌خوایم من هم شورش علی بشریت این ستاره هم که اینا در واقع استفاده میکن دوازده تو ستاره دوازده سبتونی اسرائیل ها و اینو تونستم برام فرهنگ اروپایش کنم وگرنه اتحادی اروپا نه با دوازده کشور شروع شد و نه الان دوازده کشور داره تنها ارتباطی هم که داره من به شما عرض بکنم دوازده کشور سلطنتی اروپایه که اینها میگن دوازده تا کشور سلطنتی همون دوازده کشوریه که با یهود ارتباط خوب دارن شماها سر تا پای ملکه ملعون انگلیس این افریته پر از این نمادهای صهیونیستی پر از این نمادهای صهیونیستی از تاجش اساش و های فرعونی این که قران قدم روی فرعون دست گذاشته اشتباه نکنید شاید کسی برنامه فرعون تو قرآن فش نخورده باشه و وجالب بدید اونها میگن ما به نیوفارا با فرعون جدید داریم فکر میکنن اصلا فرعون نمادی از حکومت شیطانی روی زمینه و شیاطین و من انسه این باید مد نظرتون باشه در مورد اینم یادم بنویس صحبت میکنم که ساختار حکومتی فرعون امروز چه ساختار سیاسی سیاسیش ساختار مالیش قارون ساختار نظامیش هامان که دقیقا این مثلث همین امروز وجود داره و شهر گناه که به وجود آوردن سین سیتی که اصلا امریکا سه تا پایتخت داره یه پایتخت اقتصادی در نیویورک یه پایتخت سیاسی داره واشنگتن و یک پای تخت چه کاری داره به اسم لاس وگاس سین سیتی شهر گناه شهر گمبلینگ شهر فحشا شهر پرنو, شهر پرن اینا اتفاقی نیست این یک حقیقت که به قول فلسفه ابتدایی قرون اولیه میگفتن که این سایه که در مقابل نور قرار گرفت به وسعت تاریخ تاریکی خودش انداخت رو تاریخ و اینها داره تکرار میشه قرآن خیلی زیبا اینا رو همه رو توضیح داده راه مقابله با اینها هم توضیح داده این کارت تاروت که خیلی الان باب شده و فال میگیرن فال تاروت کبیر میاد کتابخونه ها میفروشن متاسفانه مسئولان هم نمیفهمن این یکی از ابزار کابالاه کابلیسته با همینا جنگ گیری میکنن و اینا هرکدوم معنی داره این کارت کارت برجشه شما میبینید که تاج داره میفته بر اثر رعد و برقی که میزنه و مردمی که چی؟ کشته میشن دیگه. این هم درخت کابالا اگه من عکس بهتر ازش پیدا کنم براتون توضیحش هم میدم که چه چیزایی داره. خب ظاهرا اینجا داریم. اینجا هم نیستش. اون نماد خدای خورشید تالالوش که می‌خورد به مادر زمین و باعث واربری زمین میشد میشد نماد آلت جنسی خدای خورشید، خدای آسمانی. و اون رو به صورت ستونی از سنگ، ستون که در مورد ستون استون باهاتون صحبت کردم. ساختن امروز تو همه جای دنیا ازش استفاده میکنن نماد فتح یک جاییه. رو جدید جدیدم حتی خیلی علنی اومده. تو تنها جایی که تو دنیا به این سنگ زده میشد اسلام بود که اونم سعودیا جمعش کردن دورش دیوار زده. که نن نفهمن به چی داره سنگ به لحاظ بصری شما میخواد کار تصویری کنید، خوب گوش کنید. حتی اگه روی این دیوار عکس این آبلیسکو بکشن، ایرادی نداره بوزن. میفهمم چی میگم؟ یعنی ببینه به چی داره سنگ میزنه. حتی اگه این الان یه چیزی باشه، اینجا این سنگم سوراخ باشه و بره بخوره به این، فایده نداره. دوتا سنگ قرار من بخورن که این ببینه به چی داره سنگ میزنه و وقتی میره در مقابل کاخ در واقع توی نیویورک قرار میگیره، وقتی ببینه عجب این همون چیزی که من بهش سنگ میزدم که اینجا چی کار میکنه؟ این تو پارک مرکزی نیویورک چی کار میکنه؟ یعنی این شرطی میشه برای مقابله با شیطان خب اینا سری سریع میگذرم چون اینا رو در واقع قولش داده بودم که خدمت رو نشون بدهم بله اکتفا کنه چون بحثای نماداری اینا رو قبلا انجام دادم اونم خوبه ببینید بشناسید اینا رو بعضی دارن استفاده می‌کنن اشتباهی خودشم سردر نمی‌ره حالا توی شیاطین حالا میخوام یه شیاطین جن این جلسه کمی صحبت بکنم خانومام شاید بترسن شما آقایانم شاید بیشتر تر بترسید این جن معنی عربیش یعنی پوشیده معادل فارسیش میشه دیو و اینا کافر دارن و مسلمون دارن عین ما مختارن از بینشون پیامبر بحثی که اومده یا نیومده قطعا پیامبر صاحب شریعت ندارن قطعا نهایتا پیامبر منذر داره یعنی پیامبر تبلیغی نهایتا داشتن که اونم بعضی میگن حتی اونم ندارن امامت که قطعا فقط از انسان است هیچ شکی درش وجود نداره یا پیامبر خدمت شما از قلم مرسل از بین محاس فقط چون بذات شعن انسان بالاتر جایگاه والاتری داره قبل ما خلق شدن و قبل ما موجودات روی زمین زندگی میکنن شبیه انسان ها هم بودن روایت هم داریم به اسم نسناس که جسما شبیه ما بودن هم داشتن که از بینم رفتن چه بحث همین بشر ناندرتال این چیزی که دارن پیدا میکنن اینا باشن این روایت داریم از زمان باقره یعنی تنها مذهبی که همچین چیزی رو گفته گفته قبل شما آدما موجوداتو روی زمین بودن فقط تشیع شیعه اسمش افتخار میکنه اون زمانی که هیچکی نميفهمه چیه هیچ کس حالیش نبوده امام باقر ما در مورد این موضوع صحبت کرد خب امروز جواب این داروینیستا و فلان جو چیزا رو امام باقر میتونه بده متاسفانه یه مشت گلگیت شدن استاد دانشگاه و بلدم نیستن بگن حوزهم خابه رو برای تو دانشگاه بگه به شیر تو شده دیگه جن در معنی به معنی پوشیده است مجنون یعنی کسی که عقلش پوشیده است جنت جایی که پوشیده شده توسط درخت یا پوشیده از درخته. جنت یعنی سپر شما رو پوشونه. جنال لایل شب پوشان تاریکیش. اومد الفاظ همین جوری داره استفاده میشه برای آن. میگه من نارن ساموم. میگه نه از آشها نفوذ کنندن. یه سر عشقه ها هستن نفوذ نمیکنند. دیوار رد نمیشن. اما یه سر عشقه ها چیکار میکنه دیوار. ببخشید مثلا مس اس اشای ایکس مثال میزنم خب نارن سموم سمم هم که میگن سم یعنی ویژگیش اینه که نفوذ میکنه میکشه نارن سموم یه نوعی از نارن که میتونن برن تو نار در زبان عربی باز متاسفانه همه هم فکرن فقط یعنی آتش نه اشعم یعنی نار اون شعله اون حرما آتشی که میگه اونم میگن نار عرب میگه از نار سموم من بعد خدمت شما عرض بکنم. عمر طولانی دارن زاد و ولد دارن از یه چیز خوششون میاد یه چیزای بدشون میاد امام صادق میفرمازد اینا نوعی از مادهن یعنی اصلا مجرد بودن مطلقاً مجرد نیستن نوعی از مادهن اونجا بسیار رقیقه در احتجاج شیخ طوسی آقا در مورد صحبت کرده و میگه تو جالبی رو گفته فرموده و یه چیزایی هم حالا این آیه بهرانی چون بحث ساخته بود تو این سریال تو این قسم داستانی فیلم حضرت موسی حضرت سلیمان ساخته بود ببخشید من صبح همینجا جلسه دارم دیگه واقعا پلا دارم میگم ساعت دیشب ساعت 3 خوابیدم دیگه پنجم بیدار شدم تا همین الانم از تو جلسه از این جلسه به اون جلسه دیو اینقدر دیرم شده با موتور اومدم مثل جلسه قبل بعد آراز سلیمان که اینکه اون اتفاقی که در زمان حضرت سلیمان افتاده یه اتفاق خاص و نادره متوجه چی میگم اونم فقط به فرمایش ولی معصوم ممکنه اصولاً و اساساً ارتباط با جن یک ارتباطی است که انسان به دنیای اونها میره عموماً انسان به دنیای اونها میره شما میره یک نفر مجنون میشه جن زده میشه ده نفر نشستن یکیشون جن میبینه بقیه نمیدن یعنی چی؟ یعنی دیدنی نیست؟ اینه واضحه اگه دیدنی بقیه میدیدن خیلی رو حوزه خیال و وهم قدرت منور دارن اگر شما حوزه توهم خیال اینا رو قوی بکنید قدرت منور اینا رو بالا میبرید مثلا یه سری مواد قضایی یه سری خوراک یه سری ریاضت یه سری اذکار اینجور چیزا واقعا این حس در انسان بالا میبره و شرط رو فراهم میکنه این که امیر مؤمنان فرمود شکم خود را معده خود را قبرستان و حیوانات نکنید گوش زیاد نباید خورد. اما از طرفی آقا فرمودن که مبادا چه روز بگذره و گوشت نخورده باشید خب یعنی اینا روی خیلی مهم و همین مرتضا هم کارایی که انجام میدن و این بحثا که اینا ارتبو جن چیز عجیبی نمیدان قدیمم بوده از همون موقع که انسان اومد رو روی زمین یه دی دوست داشتن با شیاطین ارتباط بگیرن یه سر کارا هم دیگه فقط اینو در همین حد بگم که ولایت مولا امیرالمومنین یک حصن حسینه که کسی که تو این ولایت وارد میشه شیاطین نمیتونن کار کاری کنند لیسا سلطان علالذین امنوا و علی ربهم یتوکلون اینها هیچ سلطه‌ای بر کسی که به خدا توکل میکنه و داره چی؟ ندارن شما حالا اینا رو گفتم با مجموعه ای از فیلم ها مواجهید که میبینید انسان تسخیر میشه توسط جن تمام چند گانه جنگیری اصلا چند تا هم که رد کرد نه شد خب چند گانه جنگیری ها پارانورمال اکتیویتی که اصلا پدر سوختگی محمود اور نورمال اکتیویتیو به معنی فیلم ها مستند دادن بیرون گفتن این زن و شوهر کشته شدن ما اومدیم فیلمی که تو خونهشون بوده دوربینا ضبط کرده جمع کردیم فیلم کردیم دادیم به شما ماجرا چیه جن تو خونه اینا ر... حضور داره اینا متوجه میشن میرن سراغ یه جنگیر نمیتونه کمکشون کنه و این دوربین نصب میکنه به لپتاپ وصل میکنه دائم میریزه فیلما رو تو لپتاپشون خونه آتیش میگیره صدا خشخش میاد آخرام این حلول میکنه تو وجود زن زن مرده رو میکشه پلیس هم زن رو میکشه منم اون واقعیت پخش کردم و کلا هم تبلیغات شد من ترغی نکردم صحت دو شنه اینکه گفتن در اولین اکرانش هم یک نفر در سینما سنکوب کرده شش ماه بعد دو تا هنرمند اکسشون عکسشون جزیره هوایی اومد یعنی پدر سوختگی ببین کی پشت سر جریان یه فیلمو داره به من مستند جا میزنه دنبال چیه یه سکانسی داره این فیلم میگه که این جنگیر میره مثلا جنگیر ما کجوکلو بیریختم نی این سو خوش تیپ و اینا میارنش بعد میگه که نظرتون چی و اینجا میگه عین عبارتی که شما خطاب به خداوند متعال در دعای کومل می او خطاب به جنیان میگه ولا یمکن الفرار من هم میگه شما هیچ راه فراری از دست این شیاطین ندارید و اونها بعد باشون کنار بیاد شما میرید توی جنگیرم جن نابود نمیشه فقط از فردی به فرد دیگر فقط انتقال پیدا میکنه به هیچ وجه منال وجود. این قدرت نمایی و از قدرت سازی و حلول و تسخیر توسط جن مطلقا در اسلام جایگاه به هیچ وجه ندارد اما یه ادهه حالا دنبال این هستن که براش جایگاه های بتراشن متاسفانه یک جریاناتی توی همین سینمای بچه ازبالایی یا ورود پیدا کرد و یه مرید و مرید بازیایی که رفتن سراغ یه بنده خدایی حالا من اسم نمیبرم اسم این عزیزانم نمیبرم. آدم خوبینم از این جهت بیمار و مریضن و باید واقعا درمان بشن. کارای خوبی نبود. اتفاق خوبی نبود. و تو کشور خودمونم متاسفانه فیلمای در مورد اینها ساخته شد و اینکه شما میتونید از جن استفاده بکنید مثل فیلم مزهک و مزخرفی که قویدل ساخت حالا فوت هم شده. خب با عنوان دوستی از جنس آتش اسم این فیلم بیانگر و گویای همه چی هست که این جن به اسم هزغیل کمکشون میکنه برای این فیلم داری اینجا میتونه داشته باشه؟ نه نمیخوام بدم شما پخش پس میکروفون بید من اینجا بذارم یه اسپیکر دفع قبل آوردی چیها دفع قبل؟ یادتونیست نشون صدا نداشته این دقیقا اجتماعی راست میگه صدا داره دیگه بابا شما را سر کنم من یادم یه چیزی پخش کردیم خب اچه صدا نداره الان؟ برو وست کن صداشو واسه تو قبل انت واسه تو آها این صدا چیزه لابد، این ها باید دست بر بریم. شما که سر در میدونید، ایچگاه کن. میبینید؟ حالا ببینید اینجا خیلی هم موسیقیه، مثلا خیلی ترسناکی گذاشته. هیپ hey, داره سینه چایی میریزه، بر hey, برمیگردی؟ میبینید یکی شوخی شهرستانی داری باش میکنه؟ سینی چه جابجا میکنه فیلم اینجوری یه تیک هایشو مثلا من جدا کردم بعد اینا دارن تعریف میکنن هون هرپیش هم که استفادهش هم هرپیش های درجه دو خب من وجود همچین فیلم بسیار خطرناکه یعنی هستن تأصف برنگیز چت یک دین به یک جنی به اسم هزغیل بله بشه آره، دردی نمیشه، ایراد داره فیلم. اصلا به هیچ وجه ما حق نداریم از جنس استفاده کنیم. دو سه سال پیش من خودم داشتم سوار بازم موتور بودم اون موقعم. داشتم می‌رفتم یه دمی تو سینما زده دوستی از جنس آتش. به این دوستمون که از جنس انسان بود گفتم بزن کنار. زد کنار گفتم بریم اونموج وایس سین برای سه نیم ساعتی هم مونده بود. رفتیم پنج شش نفر بودیم. حتی یادم میگفتهش که تعداد کمه برگزار نمیشه ما گفتیم چند تا بشه برگزار میشه ما اون ماب و خریدیم بیلیت گرفتیم که من بشینم فقط نگاه کنم ببینم چیه خب از اسمش و این نورا و این چیزایی که اونجا بود فهمیدم یه جنگ کاری با زورتقام نور آبی نگاه کنید اینا رو اصول ساخته شده یعنی با تمام کژوکلیایی که داشتن دقیق ساختن ایناشو یعنی رو همون نکاتی که میگفتم نور آبی رنگی که اینا استفاده من. یا کاراکتر زن این این داستان به طرز عجیب قریبی با شاله های قرمز و لباسه قرمز دیده میشه. یعنی الگوی لیدین رده. یعنی ایناش دیگه اتفاقی نیبرکس. خیلی هم اصولی نگاه کنید من سکانس های انواع اقسام قرمزار رو این دیگه عوض میکنه. بلا استثناء میبینید یک رنگ قرمز در لباس این. میبینید. استفاده شده آره شما این خود خور رنگ ها رو خوب نمی بینید ها این کیفیتش پایینه الان خودم دیدم, دیدم شاید به نفش آره رنگ های تیف قرمز و نارنجی و همش از همیش در واقع الگوین رو استفاده کرده که این مشکل داره میخوام بگم که این تفکر اونا امروز واردم شده منطقه ها کسی نمی اینا رو کسی نمی شنس اینا رو من نمیگم وصلن به اونجا به خود حرفم این نیست میگم که اینا کپی برداری میکنن شاید چون آدم بیهنری هم هستن یک کپیبرداری برداری صرف میکنن میارن همجه استفاده میکنن همین خرابکاری ها در میاد توی اون فیلم قبلی هم که گفتم آقای دوپهلو اونم هم بخش فیلماشو دارم که اصلا زندگی دوگانه زندگی خواب اصلا الگوشو تبیین میکنه اینجا چطور میتونی تو خواب لذت ببری؟ چه تو خواب میتونی رابطه جنسی داشته باشی؟ اصلاً اینا به یه شکلی تو این فیلم میده این از خواب بیدار میشه بعد خانمش میگه های لباسای نورو از کجا آوردی و فلان این میره با حوله روی دوشش برمیگرده. اما تو فیلم این استنباط وجود داره که رفته شسته مثلاً از خواب بیدار شده. خب اما یه چیز دیگر تو ذهن هست چون اونجا توی خواب این یه زن دیگه داره. یه زنی که از این زن بیداریش خوشگلتره پولارتره قروفرش بیشتره. منتها این آخرش هم یه جوری اینو بلدن اخلاقیش میکنن که صدا سیما پخش کنه دیگه. میگه اونجا پسر معتاد داره بعد برمیگرده یه من همین زندگی این دنیا رو بیشتر دوست دارم به جایش بچه‌هام سالمن اگه پول ندارم نه اما مدل این زندگی تبیین میشه. خب این خطر داره. حالا من تیکت دیگه از این فیلمام میذارم. اینجا جن شوخیش میگیره برق اتو میکنه براشون. می‌دونم چه قرار مشکل صوت جمهوری اسلامی حل بشه؟ نه، بعید میدونم من خواستم میگه یه اینجا صدا داره می‌بینی؟ پلیر چی چی؟ اقا اینو بزنم دیگه. نه، الان صداش پخش شد. بر خدا VLC مشکل داره تولید صدا میکنه این مشکل داره. اینا نرم افزار دیگه چشم. عقلا نباید اتفاقی افتاده. این هم نرم <تصفيق> <نباید اتفاق> <تصفيق> نمیشه دیگه اجتماعی. صدا با هم میگه. حالا سعی کنید فرض کنید این صداها براتون داره پخش میشه دیگه. من یادم این دیالوگش چیه و اینا براتون میگفتم. یه سری فیلما من خیلی دوست داشتم رو هم حفظم یعنی این ها بذارم فیلمو بعد چند ساله مثل روز واقعه من دونه دیالوگاش هم میگم سریال امام علی دونه دیالوگاش هم میگم اما اینه واقعا به اینجا شوخی میکنه باشونو با این زنه ارتباط داره ببینید اومد توی خونه. میخواد به این داستان یه قاتل یه زنی به ناحق کشته شده جنه میاد به این دخترم یه قاتل که برو پیداش کن کمک گرفتن از جن الگوی اساسی فیلما ایناست شما تو همین هریپاتر، ارباب حلقه ها و شما میدونم موجوداتی که عجق وجق و اینا عمدتا جنن که کمک اینا میکنن اینجا فکرم ظاهرم میشه جنه این نور آبی که با زوری اینا رو گرفت و اینا تشریف بود ببین قشنگ الگو بلوجینه ها سندرش کشید بود در انتحام یک رابطه عجیب آشقانه با این خانومه برقرار میکنه جنه اینش عجیب غریبه عاشقانهی با این جنه برقرار میکنه و براش گل هم میذاره. اینا با آقا پولیسه دیگه به هم میرسن. آقا پولیسه میاد باطلر رو پیدا میکنه و همه چی به خوبی خیلی خیلی فیلم هندیه. اینا اینجا به شکلی یک دختری میاد. یه شاخ گل سرخ براش میذاره و ببینید این نوع چهره همون چهرهی که جنه آبی هم همین شکلی بودا مدل چش بینی همجرونی آلا کرده. یه ارتباط خیلی تجسومی و واقعی از خدمت شما عرض بکنم ارتباط جن و انس که شروع شده تو سینمای ما و اومد بره سوار ماشین بشه دید گلش جلوی در ماشین افتاده که برداره و بره یه سکنس بسیار بد داره که اصلا فاجعه است این سکنس سیکانسی که اینا میرن پیش خو... یه جنگیر میرن خونه جنگیره که توی... من تو سینما اینا دیدم اما توی پخش تلویزیونی و سوپر مارکتی که اومده رو حس شده برای اولین بار این خانومه چادری میشه زمانی که میخواد بره پیش جنگیره این آیه فکر کنم نقشش این آیه بیچاره بازی کرده بعد یه خونه خیلی کله کثیفو میره اونجا و میگه که راه ارتباط با جهنم چیه اینان هر موقع یه جن گم کرد می‌خواد آمارشو بگیره بعد بره پیش مثلا آموزشیه آموزش جنگیری حالا بعید نیستا رو بهتون بگم اینا ارتباط با جن هست بعضی از ها دارن اینا هم کافر و مشرک میمیرن عین روایت اینه کافر به تمام کتب الهی میمیره آدمی که این کارو باشه چه فیلمنامه هایی داره این انیمیشناشون اصلا آدم حزم میکنه میشه نگاه میکنه باور کن چه زحمتی میکشن نون زحمتیشون باز یه بخشش وحی شیطانی ها بخش از فیلمنامشون وحی شیطانیه باید یعنی چیز عجیبی نه اما وحی الهی اگه وصل بشه اهل ذکر کثیر باشیم چه فیلم نامه هایی بنویسیم چه فیلم نامه‌هایی بنویسیم بخاطر اینکه هنرمند مسلمان باید اهل ذکر کثیر باشه آیه قرآن داریم اهل ذکر باشه دائم به یاد خدا باشه وصل میشه مینویسه چه چیزی هم مینویسه میخواد از خجالتش در بیاد برای موشه دستمال مینویسه جل پنجره فاضلاب موش طبعا به چاقو نیازی نداره این براش اندازه طالبیه این هم نونه این هم پنیر رو این هم کره چه انگور اونجا البته یه صدای از دریچه فازلاوه رو به رو میاد این چاقوشو برم داره خوش دفاع کنه روی این اصول البته میدونی که چاقوی پنیر توی اروپا دو شاخه میسازن اما نه این دو شاخه ها این یه دوشاخه شمشیر عربی قوستاره خیلی واضحه دیگه <laughs> بیشتر نمیشه حتی میترسه ها خیلی جالبه و پشتش خاک میشه ببینید اینجا داری میلرزه نمیه سراغش که اینجا خیلی واضحه حتی لفظی هم که استفاده میکنیشی تو مایه علی میگه خب این هم سریال عمر این لحظه ترور خلیفه دومه چی باید بگم حالا <تصفيق> اینجا نگاه کن اینجا این کارکتر را ابو لولو لو میخواد ترور انجام بده خنجرش رو در میاره بزنه باز هم از چه استفاده کرده چی میخواد برسونه آمره امر کننده ای این عامل ترور کی بوده امیرالمؤمنان که اینطور نیست اهل بیت تو کار ترور نبودن یاران اهل هم تو کار ترور نبودن مثل که حضرت مسلم که میتونست سم اونجا بزنه ابن زیادو ناکار کنه و اصلا جریان شد عوض میشن اهل جنگ مردونن اهل نبرد اخلاقی مق هدف وسیله رو توجیه کنه این ویژگی مسلمانه پس تو دلت هم خاطر از این بحثا هست، و از این مسائل است که حالا میره در واقع رو انجام میده. یک سریال موزهک و مزخرف و سراسر دروغ و چرت و پرت تو اصلا هیچ چیزی نداری اصلا می‌خوای دفاع کنی. 3 4 مدل تحریف قرار گیره صورت گرفت تو. یکی تحریف اصلا چیزی که اصلا وجود نداشته. یه سری تحریف تو منابع اهل سنت، یه سری تحریفی که چیز واقعیت بوده، الان من میتونم کن کنم، نگفته بود. اصلا چهره خلیفه دوم که اینجا نشون دادن، خب این چهره ایشون اینجوری نبوده برعکس این چهره که از خلیفه دوم نشون میدن به چهره امیرالمومنین تو روایت میخوره تو روایت چهره حضرت امیر نقل شده که ازت موهاشون از بغل کم در می اومد یعنی مثلا مثلا موهای سر بنده بلاتشوی صحیح خورده گودی داشت خب ریششون په بود مستطیل شکل بود قدشون چهارشونه بوده بازوی پاهن داشته شونه های داشته یعنی قدشون بلند نبوده خب اما خیلی چارشونه و توپور بوده حیکل. بعد اینا رو همه رو توزه چشمها چطور بود همه توزه پیشانی بلند بوده بعد هم اینا توصیف شده این چهره که از کارکتر خلیفه دوم در آوردن توی این سریال برعکس به امیر المومنین میخوردن حضرت علی این سریال که برعکس توی این سریال نوچه خلیفه دوم نشونش میدن عملن. که آقا هر چی میگه تاییدش میکنه و فلان شبیه این چیزا این چیز کیکش مش مزخرفاته خوب شب این در دروردن ببین اینا مهم ما پس ورده امام زمانی رو شد شبیه که این شمایل ها بود یه شمشیر دو هم دستش بود مردم او رو باور کنن یا یه نفر که نه چهره نمکین زیبا داره یه شمشیر معمولی مثلا چه می‌دونن بخردم بقول زلفقار اصلی دستشه مردم میگن این این درست. با این منوس تا همون شمایلان هم باز هزار جور پداستوختی دستکاری من اگه بتونم یه چیزایش نشون بدم بدک نیست. بتونم پیدا کنم. خطرناک اینا. یه وقت میریم توشی چیزایی در مید بدن شعر میشه. حالا اینجا هستم تو مطمئن نیستم. وقت اخ میریم تو یه جایی. ما مامور به آرشیو کردن هستیم اینو وقت <تصفيق> آره شما خورده در دیوار نگاه کنید من اینجا رو بگردم پیدا کنم میدونم دارم مونتاپ انقدر فولدرامو دیگه شیر تو شیر شده که نمی‌دونم از کجا با پیداش کنم این شمایلی که از قصه فقط بهتون بگم حالا صلاح هم نباشه تا بخشش کنید این شمایلی که دارم می‌کشم توش چیزای پیاده شده یه سری چیزا پیاده شده و یه سری شیطنت ها شده که هل قصه بگذر خب این بحث در واقع جن که چجوری اینا میان از این فضا استفاده میکنن و جن میشه به عنوان دوست انسان و کسی میتونه که به او او رو به جاودانگی برسونه و کاراشو انجام بده دوست پیدا کنی قاتل پیدا بکنی پولدار بشی چجوری پولدار بشم بری شرکت تحسیس کنی یک کالای تولید بکنی. اونا وسوسه کنن که مردم اینو بخرن اینا رادم باورش نمیتونه جایی بگیه به خدا یعنی دیوانه شدی اما هست آی قرآن داره بده بستون دارن با هم دیگه و رجال من الانس انس یعوزونه به رجال من الجن جن پناه میبرن مردان از انس به مردان از جن جای دیگه داری میگه شما از هم بهره بردید از هم بهره بردید یعنی به هم سرویستهی کردید شیاطین در مقابل اشعائی گناه سر سیر سیر میکنن به اونا اگر در حد دیدن یک صحنه مستحجنه حالا من توضیح نمیدونم چی؟ آدم باید کفاره بده یک ساعت تونیوی فیلم مستحجن ببینه چی میشه پر که نمیتونه رو بسازه که؟ کی باید بسازه؟ فقط انس اینجا من بده بستونه میگیرم یه تا این کار رو بکن من برد این کار میکنم اشاعه گناه و هر چه گناه اشاعه پیدا بکنه کار این جنگیره چی میشه؟ کار جنه تر میشه، شیاطین آسان میشه. پس شیاطین من ال انس هستن. عدد قدرت رو تو کابالا 72 میدونن. حالا آره شما شیعی به درتون میخوره. این عدد حقیقیه، اونا بدلش زدن. واقعا عدد قدرت چنده؟ اما دو امام باقر علیه السلام میفرماذ اسم اعظم 73 حرف است. در اصول کافی که یک حرف آن نزده که آصف ابن برخیا کی بود وزیر حضرت سلیمان معاونت اصلا هم کار جنگیره کار همین بود خب میگه از هفتاد و سه حرف فقط یه حرف نزده او بود موسا فقط چهار حرف در نزد او بود خواهم خب قدرت رو بفهم هفتاد و دو حرف آن نزده ما اهل بیت است اون همه کاره که حضرت موسا کرده با چقدر چهار حرف هفتاد و دو حرفان ها نزده احلویت است. یه فیلم نمیسه مسلمون نداشتیم طالب بدین و فیلم نامش کنه. حتی اگر میخواد بره وارد بشه تو سینمای تخیلی توی سینمایی که فضا رو عوض بکنه مردم پسند بشه امروز پس، امروزی بشه وا داریم به خدا قسم رو. چون اهل مطالعه نیستن. همون الگوه خارجی میارن این طرف پیاده میکنن نمیفهمن اصلا او دارون ندارش بدلی از حقیقته پناه بردن و استفاده از شیاطین بدلی است از فرشتگانی که خدا در اختیار کی قرار داده اهل بید. چهار فرشته اصلی که فرمانده لشکران هر کدام بر شش فرشته بزرگتر بزرگ حکمرانی می‌کنند که میشن چهار تا گروه چند نفره هفت نفره چهار بیست و هش حرف عربی حروف عربی را بنویسید الف با تا سا تایا. یا جنب بذاریم چه چقدر الف سه حرف با دو حرف تک حرفی نداریم مثلا یعنی حرفی نداریم دو حرفی, دو حرفی. جمع زن میشه هفته دو حرف تمام حروف نزد ما اهل بیت هست کلمات نزد ما اهل بیت هست اصلا نحنو کلمات الله اصلاً بسیاری از موارد جاهایی که در گذشته حتی اینو داریم ما روایت بابت اینو داریم در خصال شیخ صدوق روایتش رو حضرت امیر میفرماد که آقا جوبتر منم جوبتر اما منظور مشتری حالا من توی سخنرانی دیگه گفتم من گفتم مشتری مثلا انا مشتری گفتن که آه عربا که جه ندارم منم میفهمم ندارم که من, من دارم کلمش فارسی برات ترجمه میکنم میگی زحمت نکشی جوبتر کنگر فلحند فی حبشی بویی من در حبشه من گفتم بویی در هند من گفتم فلان در یه فورس فلان به من میگفتن ان در روم به همان میگه رومی‌ها به من اینو میگفتن یعنی چنون دنیا اصلا شما این خدایان چند گانه بگید دوازدهگانه خدایان 12 دوازده گانه کوه المپ خدایان 12 گانه مصر باستان ان عدد الشهور عند الله اسنا عشره اصلا اینا برداشت بود بشر که از برداشت انحرافی که از حقیقت دوازده امام داره اصلا مبنای خلقت اینا بهتون بگم من قرآنی اثبات میکنم به هر عربی شما بگید وقتی حضرت آدم قرار گرفت اینا گفتن به سجده کنیم همینطوری چه این سجده کنیم, کنیم؟ فرشت انقل داشتن فکر نکنی فقط جن... فرشت... ابلیس بود اسن اینطور نیست فرشتام هام داشتن. بذار خب چی این سجده کنیم؟ اصلاً چی داره این؟ خدایا. اگه بخوام آیهشو براتون پیدا کنم؟ خودتون نگاه کنید ببینید که چقد این عجیب غریبه. خب این خیلی آیه مهم، آیه مهمی، خیلی سوره بقره 33. وعلم آدم اسماء كلها. به آدم همه آن اسامی را آموخت. ثم عرضهم على الملائكه بعد اونها رو عرضه کرد به ملائکه اون ها چون قطعا این هم به جمع بر میگرده آدم هو با حوا با هم دیگه میشن چی هما آره الان فقال ان بعوني ها اوله آی ملائکه اگه مردید اسمایه چیو بگید ها یعنی چی آنها اسمش کیا که جمعه اگه آدم حوا هوا میشه چند تا؟ هما اون دوتا اسم کیار رو داره میگه؟ هاولا تو زبان عربی در کی استفاده میشه؟ فقط موجود زیشعور حتی عربا به بوتاشون میگفتن هاولا میگهن چرا؟ شعور داره این؟ بل احیان به قولی زنده است و اسماع هاولا این کنتم صادقین ای, ای راست گویید اگه راست میگید چونه گفتن خب چی ماساژ کنیم و اذ قال ال... و اذ کلیل ربك للملائکه اني جاعل في الارض خليفه گفت من میخوام جانشین خودم بزنم رو زمین جانشین خدا روی زمین یعنی خدای روی زمین بنی اسرائیل دنبال چیه تبدیل شدن به خدا روی زمین پس دعوا سر امامت و خلافت الهیه منتها از طریق نامشروع از غیر مسیر عبودیت میخواد به دست بیاره از طریق چی؟ با کمک شایاتین جنی تمام شرف آیش هم جلسه قبل براتون آوردم قالو اتجال و ها من یفسد و فیها آیا میخوای یکیسی اونجا قرار بده که فساد بکنه در ها چیه؟ عرضه بهتونه آدم هوا تو بهشت بهش اصلیه نبودن یه جای خوشابه هوایی بود رو همین چه زمین قرآنی جلسه قبل جلسه دلیل براتون آوردم و یسفک دم و خونم می ریزه و نحنان و سبعو به همدک ما که داریم تسبیحت می‌کنیم میگه خودت چی آفریدی چون اونا میدونن خدا به کسی نیاز نداریم میگه خب واسه چی نیافریدی ما که داریم تسبیحت می‌کنیم رو فکر میکنن مثلا خدا نیاز به تسبیح گفتن اینا داره و نو قدس لک تقدیست هم داری میکنن میکنیم قال انی اعلم ما لا تعلمون خدا بخفشید من این چیز می چیز میدونن شماها نمیدونید اما خفشیده دیگه تفسیر رایفی خب و علّم آدم اسماء كلها، ثم عرزهم على الملائكة فقال أنبعوني باسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا فهم كيت شيز نميدونيم إلا ما علمتنا إلا اين كه شيز به ما تو یاد بدیم که چیزی سرونشه إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبع یا آدم انبع هم به اسماء هم گفت آدم اسمشون رو بین یاد بده تا اسامی رو گفت چی شد اسجدول آدم حضرت آدم شایسته سجده شدن شد فلزا آن مقام یک مقام بالای خلیفه و لایز فرشتگان به مقام حضرت آدم سجده می نه به آدم ابوالبشر الزامن مثلا با آن مقام خلیفت و که در زوریه کی قرار داده شده در آدمه میتونه انسان برتون بالا بالاها وقتی گفت سجده کنید اینجاش خیلی قشنگه قال یا آدم انبه هم به اسمائه هم فلم ما انبه هم به اسمائه قال علم اقل اقل لکم من تو نگفتم دیدید وقتی اسم رو گفت دهنا بسته شد هیچ نتونست دیگه نطق بکشه یعنی حجت تمام شد ببینون اسما چی ان کدام موجودات هوشمندن که قبل از آدم آفریده شده انی اعلم غیب السما غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون من میدونم اون چیزی رو که تبدون یعنی چی آشکار میکنید و ما کنتم اونای که قایم میکنید خدا گفت فهمیدم دهنتون بسته شد اما هنوی چیزهایی رو چکار کردید نگه داشتید خیلی قشنگی این داستانه که تو فیلماشون تو سریال در مورد ملائکه میسازن اصلا داستان احلویته ترنسفورمره چی چیه فیلمی ساختن پنی نفر از آسمون میان چار تا مردی دونه زن از یه چیزی مثل کعبه میان بیرون اون خانومه تو این فیلم از پهلو ضربه میخوره اینا الگوی یا همسا یا خمسه رو دارن تو ایوازه همسا پنج استفاده میکنن پنجی که در چارده گره میخوره تعداد بندهای انگوشتای شریفتون شستتون دوتا بند داره و هر دو با همدیگه میشه چقدر دوتا دست؟ دوتا چارده تا دیگه چیز پیچیده نیستش بیست و تعداد حروف عدد هفتاد و دو یعنی چی؟ یعنی تمام ملائکه از عرش تا فرش در اختیار شما بگو بباره بگو بتابه بگو برگرده بگو شکافته بشه بگو سرد بشه بگو گرم بشه فلذا اگر این شعر رو خوند که هر کسی میخواست هر کاری کنه اسم اهل بیت تو آورد یا علی گفت یا علی گفت ای این بیرانی عین حقیقته حضرت زکریا هر،, هر پیغمبری که خیلی آزمایش پس میداد ابتلا پس میداد مقامات بالا میرسید خدا میخواست بهش حال بده بهش اسم فکر یاد میداد انبعهم هم به اسماء ها اولا اسم پنجتانید شد میگفت تازه مالا چی شدی؟ راه افتادی آدم اصابت میکنیم بگو چی؟ بیاد پاینتر اینجا نگاه کن، اینجا که آدم اخراج میشه وقل نحبت بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر و ومتاعنا لاحين فتلقى ادم من ربه كلمات تلقى نمیگه یاد گرفت از علم نیست از قبل بلد بود دوباره یادش افتاد تلقى یعنی این یعنی دوباره بر هم دوباره برخورد کردن دوباره رسیدن به هم به هم رسیدن میگه دوباره یادش افتاد اونارو تا گفت وتوب عليه انه هو التواب الرحيم خودتون از من منو, منو به اهل سنت براتون میگم مثلا مستدرک حاکم نیشابوری در المنصور جلال الدین سیوتی کنز الانمال متقیه هندی میگن اون پنجتا کلمه ای که گفت آدم و بخشیده شد چی بود؟ یا حمید به حق محمد یا عالی به حق علی یا فاطر به حق فاطمه یا محسن به حق الحسن یا قدیم الاحسان به حق الحسین اینا رو گفت بخشیده شد اینکه حضرت امیر میفهمون شجره ای که آدم بهش نزدیک شد شجره انسان کامل بود شجره خلیفه الله بود نه الزاما یک درخت اصلا اشتباه نکنید نمیگم درختو نفی میکنم اما نه میتونه مصاغهای مختلف داشته باشه در عالم بروز در هنگام بروز کردن شکل مختلف به خودش بگیره اما اون شجره شجره اهل بیته وقتی آدم ها حوا نزدیک میشن به اون درخت میگه ولا تقربا از شجره. میگه به این درخت چی نزدیک نشید متوجه شدید اما اینا نزدیک شدن تا نزدیک شدن چیشون آشکار شد زشتی هاشون دقت کنید زشتوش اینجاش خیلی قشنگی ببین آدم حوا رو می میگفت من دیگه ته آدمم میگم من من مرد, مرد دیگه آخر مردم حوام آدم رو می دید میگفت منم آخر زنم خوشبخت بودن دیگه. کیف می‌کنه مثلا مثلا فرض کنید یکی تو قد و قباری من چین بگیم اجام قد و قباری داریم و قاین ماینا رو نگاه کنیم و چینی ها ریزه میزن بعد یه بلندشی بری هولند و فنلاند و میگه؟ اوه کوتاهی قدمون چی میشه رفتن خودشون رو در مقابل علی و فاطمه و اولادش قرار دادن زشتیاشون هاشوناش شد حالا ایرادی نداره خطا کرد و اصادن ترک اولا کرد بعد برگرده تنها راه باز... بازگشتیه باز هم همینا حسودی به اینا نکن امیر مؤمنان میفهماد یونس به ولایت من شک کرد خدا چپونش توشیگم بایی من این قرآنی هم میتونم این روایت اثبات کنم صاحب یعنی چی؟ تو عربی ها. فارسی نه من واقعا ممنونم اصحاب پیانبر یعنی چی؟ همراه یار نه همراه همین اصحاب یعنی همراه میگه ولا لا تکن که صاحب الهود به پیغمبر ما میگه میگه مثل کی نباش صاحب ماهی همراه ماهی نباش درست شد؟ میگه وقت نباش یا هوشدار میده پیغمبر. بر امام زمان رو حد 85 بار گفته 85 بار حد اقل. یک کفه کفش گفتن میگه سن اومن پسر مرد پسر انسان سن اومن میگه وقتی سناومن بیاد پسر انسان بیاد اینجوری میشه گورگ و بزغاله کنار هم میشینند اونم اینجوری میکنه اینجوری میکنه این قطعا عیسیا بگید نیست چرا نیست به دو دلیل یک خدا حکیمانه سخن گفت انجام هم گفت آره بکن انکنتل علیم الحکیم خدا حکیمانه حرف میزنه میدونست اینا یه روز میزنن جاده خاکی به حضرت ایسا میگن سناو of God. پسر خدا به خاطر هم از آقا صاحب زمان میخواست حرف بزنه گفت پسر آدم پس قطعا حضرت ایسا نیست یه جا دیگه هم خیلی جالب حضرت عیسی میگه من و پسر انسان با هم می آییم اینن تو انجیله این کیه بسم الله آقاین مسیحی خانمای مسیحی بفهمید این کیه ما مشتریم همین فردم یه مسیح میشه تو اثبات کنید چقدر اینا الگو داره چقدر در فضای, در فضای اپوکالیپس و آخر و زمان این فیلم ساختن اینا مال شما هاست میگه و شیطون میاد اینا رو بریزه با دومش میزنه و از این دوازده تا تاشو ویژن نمیشه کارشون کرد این چارتا هم تو قرآن آیه داره که از این تا ماه چهار تاشون منهم هرم. چهار تاشون فرق دارن امام باقر فرمود اون چهار تا علیای ماجران شما دقیقاً میبینید چهار امام نام مبارکشون چیه علیه و این چهار علی دقیقاً زمانهای سر کار اومدن که چیکار شده شجره طیبه اهل بیت داشته قطع میشده تناب باریک شده یه علی اومده علمو برداشته امیر بعد از صقیفه علی ابن الحسین بعد از آشورا علی ابن مسرزا بعد از این که دیگه امام زمان چارده سال تو زندان انفرادی بوده امام زمان خودشون زمان وقت و علی ابن محمد امام حادی که بنیانگذاره و آماده, آماده کننده شیعه برای قیبته و شبکه فقه ها و وکالتو میسازه چقدر این تا خدا میگه به همین تا علی دین قیمه یه هدیه هم من به شما میدم خودم پیداش کردم اد... این آیه خواه میدونین آیه که میگه دو... ماها دوازده تا بودن از اول خلقت از اول خلقت ماها دوازده آسمون و یعنی کره زمین و ماه هنوز خلق نشده آخه چجوری دوازده تا ماه بوده چرا بعضی نمیفهمن چرا قرآن اینقدر سر بعد امام باقی میفهند دوازده ماه اصنا عشر این نحن مایم ما ماییم اولی همینجون میفهند علی میاد تا امام دوازدهم نامی نام میبره بعد میگه اربعت من هم هرم چهار تا از این ماها چی ماه ها ماه حرامن. ماه های حرام ماهای حرم کدومان؟ محرم نیستش سفر نیستش شمه اشتباه مینامیم چرا محرم رجب زلغده زلحجه و جالب اینجاست بدونید عزیزان من اومدم وقت خودشم این چهار امام یه چیزی عجیب غریب دیدم امیر چه روزی امامتش منو شد امام بعدی امیر المومنه. بگیر درست می روز قدیر چه ماهی بود؟ این اولی ماه حروم آقا علی بن حسین امام سجاد کی معلوم منو شد امامه روز آشورا اینم ماه رو. ماه حروم بعدی محرم آقا علی ابن مسرزا کی معلوم میشه امامه؟ شهادت امام کازم در ماه رجب امام بعدی آقا امام هادی علیه السلام کی معلوم میشه به امامت رسیده؟ در ماه زلقعده که شهادت امام جواده دقیقا میبینید اون چهار ماهی که حرامه این چهار علی به امامت امامتشون مسجل شده و نکته این ماجره هده چهار امام چهار تولد چهار امامت چهار شهادت میشه چقدر؟ دوازده تا از دوازده رویداد داد نه تاشتو تو تاشتو همین چهار تا ماه باز دو یعنی یه بیستایی که شهادت امیران مومین که بیرونه سه مورده فقط اصلا خدا برای اینا صحبت کرد بقیه توفیلی وجودشون بودن ماها حال بکنیم جز اونایی نبودیم که حسادت کنیم به این شجره طیبه به آل ابراهیم اصلا شجره یعنی شجره تو قرآن یعنی اهل بیت یه شجره طیبه داریم مثل کلمه طیبه کلمات الله نبودن یه شجره خبیسه داری شجره ملعونه داری که اونم روز زمین شک گرفت بنی امیه که آخرش هم به سفیانمون منجر میشه و اونم از باز اولاد بنی امیه ابو سفیان و باز با کی میجنگه با صاحب زما این دو شجره بعد این شجره به حسن و حسین علیه, علیه ما سلام که میرسه یکی میشه زیتون و یکی میشه انجیر قرآن میگه و تین و زیتون و تور سینین و هاوز البلد الامین و تین و زیتون و حسن و حسین و, و تور سینا و علی و هاوز البلد الامین روایت داریم حالا میفهمیم قران چی آقا خدا چی چی داره میگه میگه انجیر زیتون تور سینا ببرین مکه نمیفهمیم خدا به واسطه امیر در تور سین رو با حضرت صحبت میکن روایت داریم روایت داریم یعنی تفسیر قرآن حالا نگاه کنید چه چی؟ زیتون میشه روایت میگه که یعنی امام حسین انجیرم یعنی امام حسین چه فرقی زیتون انجیدارن؟ دارن؟ هسته نداره راست میگی هستن؟ ادامه نسل ما در طریق که؟ زیتون که هسته داره دو تا دانشمند ژاپنی کشف کردن یه پروتئین جوانی هست که فقط توی انجور زیتونه وش مسلمان شدن خبرش هم تلویزیون گفتم اینو تو اینترنت حسن حسین بقیش شما حسین بروشوید سیدا شباب اهل الجنه نه. بعد حالا برید آیه نور سوره نور رو بخونید چه میارم براتون اینجوری که شما مسلطید بر کلام وعی آقا می میدونست شما میامد میاید به خدا پیشنادون کن. کن من دیگه ما رو به پیغمبری برن نگذیم نا هستن سرکفت میزنم که خورده به خودتون بید الله نور و سماوات والارض مسل و نورهی کمشکات تفسیرش رو براتون میگم هدیه من برشون الله خداوند نور آسمان و زمین هم. مثل نورش کمشکات یعنی که فاطمه فیها در فاطمه دو تا مصباح میاد مصباحون المصباح مصباح. دو تا حسن میشن چی؟ با هم عربی حسنین فی زجاجه در فاطمه از زجاجه چه فاطمه که انها کوکب درری که او ستاره درخشان یو قدومن شجرت مبار که این از همون شجره مبارکه شعله میکشه و نور میگیره شجره مبارکه یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام آقای امام صادق شهادتش سر گذاشتیم وقتی رو آتش زدن تو آتیش راه میرفت گفت انب نو خلیل الله منم فرزند ابراهیم خلیل الله انب نو فاطمه زهرا ببین چه کسایی رو میگه کسایی که آتش زدن رو بگید نگرفت نه, نه حضرت ابراهیم تو آتیش سوخت نه حضرت زهرا سلامان درمون در حضرت زهرا همه چی نقل شده سوختن چون تو ادامه آیه میگه شجره مبارکه تا رسید به حضرت زهرا بعد از طریقی که پیدا کرد پس اون وقتین زیتون که حل شد تازه سه میزه اینجا مثل این معادله این مجهوله ریاضیه بده میکنه میزه این طرف لا شرقیه ولا غربیه یعنی نه یهودی است نه نصرانی است یعنی نه شاخه یهودیا نه شاخه مسیحیا از این شجره ابراهیم اونها هم ابراهیمی هن. نه شجره زیتونه نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی ها خوب انایت داشته باشید حالا این لا شرقی لا غربیه از کجا فهمیدی بابا خب من تفسیر دارم آ تفسیر برهان روایت براتون میارم تا شما ببینید بعد یه جور دیگه براتون اثبات میکنم فیوزای شریفتون همه بسوزه ببین نگاه کن فاطمه مشکات فاطمه فیها مسباح حسن المصباح فی زجاجه حسین از زجاجه باز دوباره فاطمه یو قدمن شجره مبارک ابراهیم درست یا نه زيتون لا شرقی لا غربی لا یهودیه ولا نصرانیه فکر نکنید خودمون میگیم پناه بر خدا که ما تعویل کاری چیزو یا قران گفت نه نخوندن آقا نخ نخوندیم نرافتیم سراغ کلام اهل قرآن چی میگه حالا یه جور دیگه من براتون اثبات میکنم خدا وقتی در مورد حضرت مریم صحبت میکنه و این چقدر قشنگ صحبت میکنه بریم یه فلاشبکی بزنیم بریم به سوره مریم وذكر في الكتاب مريم اذن بذت من اهل ها مكانن وقتی میخواست بره رو به دنیا بیاره عیسی رو رفت کجا زایید کجا دنیا آورد شرقیا این شد لا شرقیه عیسی اونجا زاده شد به دنیا اومد پیغمبر بود مسیحیت اونجا زاده شد لا غربیا خیلی جالبه در مورد حضرت موسی میگه میگه موسی اولین بار فهم اونجا که تو درخت باش صحبت شد کو به تو رفت اونجا درسته رفت اونجا باش صحبت شد اونجا هم عبارت که قرآن استفاده میکنه میگه غربین یعنی. میگه از سمت غرب با میگه اونجا یهودیت به وجود اومد بعد لا شرقیه ولا غربیه بریم دوباره سوره نور چقدر خوب نرم افسارا هیچ کدوم از علمای ما نداشتن اون همه کار کردن کاد و زیتوها یوزی این روغن این این خون این درخت این درخت زیتونه همینطور نور میده یوزی صاحب ذات نوره ولو لم تمس از هننار هم به آتش بگید نداره اصلا آتش نمیتونه با این درخت تماس بیدا کنه این که میگم ابراهیم نمیسوزه از زهران نمیسوزه امام صادق نمیسوزه علی نور امام بعد الامام همین طور میان از این شجره یهد الله لنور من یشا این که خدا همه رو با اون نور آخری هدایت میکنه و الله الامثال للناس من دارم این ها رو بر شما مردم میزنم والله بكل شیء علیم این مثاله از این شجره میتونی برسی حالا حضرت ابراهیم رف به سمت کدوم شجره همین شجره مبارک از اصل ماجرا ولایت اهل بیته و تمام فرشتگان در تمکین اهل بیت رد و شمس برو طرف جالبه بدانید اهل بیت کسانی هستند با اینکه از 72 حرف 72 تاشم دست اینها بوده میبینید حد اقل استفاده کرد میبینید حد اقل عبا عبدالله وقتی تمام فرشته ها میگن کمکیت کنم چی میگه؟ میگه نه nah, من همجه زمینی حال کنم با خدا به جبریل میگه برو بین ما حائل نشو برو بین منو ربم حائل نشو که بنا و بد الله، بنا و رف اصلا به ما خدا رو شناختی تو به ما خدا رو یه به واسطه متفاوت تابودینی چی؟ خیلی عظیم و سنگین این شجره زیتونه طرف اومد از امام باقر و امام صادق علیه السلام اجازه اشتمار از معصوم پرسید که آقا چه شد, شد؟ امام از امام حسن انتقال پیدا نکرد امام حسن انتقال پیدا کرد امام حضرت فرمود که به همون دلیلی که پیامبری از تا موسی آمد اما کی انتقال پیدا کرد برادرش آروم به شما چه یه دلیلی داره کما که بدونید این شجره آمد در وجود نازنین امام حسن و امام حسین دو امام پسر امام حسین امام بعدی دختر امام حسن حضرت فاطمه سلام الله علیه دختر امام حسن اسمش فاطمه است ای دوتا دوباره با هم ازدواج میکنه و فرزندشون میشه کی امام باقر علیه سن. رسیده اصلا زن اهمیت داره اگه زن اهمیت نداشت که اصلا واسطه اینکه که اهل بید امامان به رسول الله میرسن طریقه کیه؟ غذا زهرا است فلذا کسی که مادرشون اون سید سید من پرسیدم ها وازا مناظره تو مرکز حرف میزنه بعضی حرفا رو ما میزنیم که آخ این کجا من با بزرگترین علماش میرم بحث میکنم فهمیدی با با بعضی از این کوچولو موچولهای که وسط میان چرت و پرت میگن کاری ندارم با علماش رفتم صحبت کردم با آیت الله قزوینی صحبت کردم شو گفت قطعاً سیده کسی که مادرش سید خوب باز همین شجره محسوب میشه اصلا مبنای سید بودن اینجوری اینه که به از زهرا محرم یا نه او دنیا وقتی از زهرا سلام الله وارد محشر میشن خطاب میرسه که چشاتونو ببندید قظو او ابصارکو اون دنیا دنیا تکلیف نیست یعنی چشاتونو ببندید این مثل الان ببندید به به یعنی شکلی نگاه کنیم قظو ابصارکم کن. یعنی کورشید وقتی می چشاتون بیانن اصلا دیگه چشا ببین نمینه محارم از زهرا سرشون بالاست حالا عده حسودی کردن به این شجره آیه قرآن داره شما تا ریشه ای اینا رو نفهمی داره فیلم چیچی چی بسازید میری فیلم بسازید بعدا ما باید نقدتون کنیم میگیم چه تا پرتا چیه ام یحسدون الناس ما آتاهم الله من فضله مردم دارن حسودی میکنن که چرا خدا از فضلش؟ اوتینا آل ابراهیم الكتاب والحکمه واتیناهم ملک عظیما چرا که خدا چرا خدا به بچهای ابراهیم کتاب داده حکمت داده و اون ملک عظیمی که منتظرشه که ملک سلیمان یک اشل کوچکتره که دهنا رو ببنده بگه دیدی بود حتی حضرت سلیمان سلیمانم تمع میکنه ها به ملک از صاحب زمان میگه خدا یه ملکی به من, من بده که بعداً به ندی خدا نمیگه فستجب او، نمیگه قبول کردیم حرفشو میگه ملکی دادیم. برای همینم هم که همچین کاری کرد خدا حالشو گرفت، برگشت رو تختش کیو دید یه جنازه دید که اصلا این بند خدا سر ملک سلیمان من نقد نکرم ملک سلیمان برای خودی بود و یه کار درست حسابی تازه تو وزه مهدویت شده بود و آخر زمان نقد نکردم. اصلا اون جا واقعا خرابکاری شده بود یه اسبای تو آتیش میدویدن یه خرشیدی رفت و اومد اصلا فرادوها گفت دوباره برش گردون خورشید رو نمیگه اصلا اون چه پیغمبری که یادش میره نمازش قضاشی به اسبا داره نگاه میکنه یادش میره ای نماز اسب. بعد میرنی چی نوشتم به از تفاسی تفاسیل متاسمون برداران اهل سنت هم بیشترش هست نوشتن که حضرت سلیمان که چون این اسبا باعث شدن من از یاد خدا قافل بشم دستور داد تمام ساقه اس... پایین اسبا رو با شمشیر زدن و گردن این اسبا رو اسواقشون رو میگه زد و اون آقی گردناشون رو با بدبخت ها گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسگری این چیه؟ این تو... تورات آیش هست اون عشی اشا نماز عشا، قضاش رسید به اشا این نیست حضرت سلیمان تو تورات میگه میگه جان من در ظلمات فرو رفت همون ظلماتی که کی میگه حضرت یونس فظلمات لا اله الا الله ظلمات جایی که ولایت اهل میره کنار و بره کنار چی نورم با اصلا من ندید نور تو ولایت اهل بیت دوتامینا تو آیه نور میره کنار فرذا ظلمات می... میگه عذر خواهی میکنه حضرت سلیمان میگه فرودو دوها یک بار دیگه ن عرضه کن ولایت اهل بیت تو میگه و برای دفعه دوم میپذیره خدای یه ملکی بشه یه اشعال خیلی کچکتر برای اینکه دهنا هم اشعال کوچیکتر مکانی هم زمانی هم به اندازه عمق و سطحش اما اسم ازم چند حرف بود؟ اون یه حرف چی؟ اون یه حرفه اصلا حرف نیست چون اصلا یک حرفی بگید نداشتیم او ذات خداست که همون یکی بی نهایت این دو تا اصلا قابل قیاس با همون یه دونه هم نیستن در آخر کارم همه میمیرن کل نفس الموت همه میبیرن جز و یبقا وجه فقط وجه او باقی میمونه السلام علیک یا وجه الله لذی نمیگید آه. بازم اونا میمونه. وجه یعنی چی یعنی صورت یعنی اون چی که به اینا از اون طریق رو میکنی به نفر شما این نفر از چه طریق میشناسید از چهره از صورت شما میخواید با نفر ای صحبت کنی به چی نگاه میکنی به روی اون فرد نگاه میکنی خب وجه الله یعنی اصلا با تو خدا رو شناختیم با تو با خدا صحبت میکنی و يبقى وجه یعنی وجه خدا و وسیله شناخت خدا باقی میمونه این اون مقام عالی ولایت اینا اومدن چیکارش کنن اینا رو نمیگفتم یه خوردم پارتی بازی براتون کردم و جای دیگه انقدر باز نکرین بسارو خب منم گفتم گفتیم از تو این جلسه ده نفر درو در 4 تا کار بزرگ انجام میده چه اتفاق افتاد اینا بدلشو زدن در مقابل 72 قدرت ملائکه اومدن 72 چی ساختن شیاطین رو 72 رو کردن عدد قدرت در کابالا نه 72 عدد قدرت در کربلاست نه در کابالا چه اتفاق اینجا میفته؟ 72 رو زب در پنج کردن پنج روز میشه چقدر؟ 360 360 روزی که هر روز یکی از شیاطین بر دنیا حاکمه 72 شیطان که اسماشون هم هر 72 تار بخواید من دارم یعنی آوردن تو ادبیات دینی مزخرفشون بعد پنج روز آخر هفته میشه چی؟ آخر سال حالی دیگه میت... حال کنیم دیگه تعطیلیه چه اتفاقی میفته شهر هرته شه... پنج روزیه که شما آزادید توی این پنج روز چیکار میکردن برگردیم به گذشته آرکایستی اینا و استوره اینا توی این پنج روز اینا میگفتن خدای خورشید دوباره قرار زنده بشه اگه بهارو نمیخواد بیاد پنج روز مونده به عید میخواد زنده بشه یعنی قبلا چی شده مرده. نماد خدای خروشی رو زمین کی بود همون پادشاه گور به گور شده اینا اول می‌زدن پادشاها می‌کشتن واقعا بعد یه تکونش میدادن چای پر روز دیگه نابود این زنده نشود دیگه چیکارش کنیم گفتن آقا بیام یه کاری کنیم این پنج روز آخر یکی از این زندانیا گردن کلوفتو این ها رو میاریم میذاریم شاه پنج روز شاهی کنه روز پنجم می‌کشیمش که این نماد رو زمینیش بشه می‌کشیمش بعد شاه اصلی رو برمیگردیم اون پنج روز واقعا بابا میشد حاکم واقعا میشد حاکم و حتی با زن ها هم نزدیکی میکرد بعد میزدنش پدرش درمه میکشن شاه اصلی برمیگش سخن در پرده میگویم چه گل از قنچه بیرون آی که بیش از پنج روزی نیست حکم میره نوروزی کی میگه؟ حافظ که این آیین در یونان بود در بین و نهرین بود در ایرانم بود بهش میگفتن پنجه پنجک تو این پنج روز نطفه ها رو سعی میکردن ببندن که نه ماه بعد بچه به دنیا بیاد این الگو در بهاییت اومد تکرار شد یعنی چی؟ خوب دقت کنیم این گور به گور شد و اینقدر احمقن عدد مقدس 19 نوزده روز دارن نوزده ماه دارن نوزده ماه داشته باشه هر نوزده روز میشه چند روز؟ سال س... نونتا نو نو اشتاد یکی سی و شست و دو... یکی روز اینا چار پنگ روز کم دارن این چار پنگ روزا میدونی چی بهش میگن؟ ایامل ها روزهای ها ها یعنی حرفه حرفه چندومین حرفه؟ اب جد پنجمین حرف یعنی این پنج هست. ریشه از این بهتر برای شما درات که به به کجا بنده اصلا یه مش جنگیر بههایت ساختن یه مش شیطان پرست ساختن شیطان پرست اینان نه اون بدبختی که مش سیخ میکنه شما سخنرانیه که من میگم اینقدر احمق و نادان بودن بهونه بعد جواب بدن میگفتن این رایفور اومده اون شیطان پرستی نمیفهمیدید من همش داشتم بلر نشون میدادم بوش نشون میدادم چه از موسیق سکوه نشون دادیم؟ ده دقیقه هم نشون ندادیم مثلا ببا شیطان اینان بازی نخورید ولی اگه کتشالور تنش کنه خیلی خوشتیب باشه برعکس اینه که موسیق اصلا نه خدا قبول داره نه شیطان تو دیواره خب اونی که قبول داره شیطان و میپرستتش اینان و آقا صاحب از زمان میاد خورشید وقتی میاد اینو چکارش میکنیم مل اونا الا وقت یوم الهین تو اون روز مشخص نه الایه القیامه مل گردن اینو میزنه در زمان از سلیمان به زنجیر کشیدن تازه خود ابلیس هم به زنجیر کشیده نشد یه روز از سلیمان خدا, خدا خواست خدا یه روز بش اجازه ابلیس هم به زنجیر کشید میگه بازار بیت المقدس تعطیل شد بازار بیت اورشلیم <تصح> <تصح> یه روزی که ابلیس هم به زنجیرش اورشلیم تعطیل شد, شد. خو واسهتون چاپش این نکاتو بگیرید حالا بدلش این ور شد چی 72 تا شیطان و ولایتی که بر کله هستی ساری و جاریه چرا چون از عرش خدا تا این الکترونی که داره میچرخه توی هسته ملکه موکل داره وقتی اون گردن کلفتا فرمانده لشکرها تک تق... تعظیم کردن این ها که دیگه جا خود دارن ریزه میزه ها ملائکه کوچیکمون مخلصشون هم است ناراحت نشون همون دیگه الفوس بده خب اینا که دیگه چی جای خودن تمام کون و مکان دستشونه فلزا بگن کن فیا میشه اصلا عجیبی نیستش حضرت عیسی رو خدا با چه عنوانی ازش یاد میکنه کلمت الله درسته اما کسی به این دقت نکرد میگه و هنگامی که مریم تصدیق کرد کلمات الله را ما به او کلمت الله دادیم میگه اول مریم تصدیق کرد اهل به تو مهم شبیه ای که از اهل بیتو بهشت کیو دادن شبیه کدوم امام دادن آقا صاحب الزمان حضرت زکریا وقتی تصدیق کرد کلمات اللهو شبیه که از اهل بیتوش دادن کیو دادن ابا عبدالله الحسین میشد خب؟ یعنی اصلا دنیا برای این بوده خودشون رو شریک میکردن سوره مریم اصلا سوره امام حسینو امام زمانه از حسین تا مهدیه وقتی ما اینا اونم همینجوری براتون تفصیل قرآن اصلا جز ولایت از توش در نمیاد اصلا نبایدم در آده همین چی همینه چرا چون ولایت همون توحیده و مسئول عبودیت خداست این طرف اومدن اینا کابالا رو معرفی کردن چی گفتن؟ گفتن یک انرژی هوشمندی بر کل دنیا ساری و جاری تو اگر ما میگیم ولایت بر کل دنیا ساری و جاری اگر میخوای به جاودانگی برسی باید چیکار بکنی؟ با ولایت هم آوا و هم نوا و هم راستا بشی اینا میگن اگر میخوایی راحت زندگی کنی بیمار نشی باید با انرژی کیهانی که کل دنیا رو گرفته چی بشی؟ یکی بشی که اینجا دیگه این انرژی بازی ها و این داستان ها و فرقه هایی که الان داریم داریم این هم کاری که اینا میکنن اسمش انرژی درمانی نیست اسمش جندرمانیه که تو آخر زمان داریم که اینا باب آقای علی یعقوبی میگفتن که شاید این میان و دوتا دنیا به هم میرسه و با هم یکی میشه و نمیدونم فلان این بحث اینا نیست دقیقا یک همراستا شدن با انرژی کیهانی بدلی از همراستا شدن با ولایت بیت فلیزا تو آخر زمان کیا در امانن از فتنه شیاطین؟ ولایت علی ابن عبی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی آیا ولایت جز توحیده؟ کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی هیچ فرق ندار ببینید یه مثال خوب میزنم حال کنید این تو این سخن چگونه گناه نکنیم کامل گفتم اینجا هیف یاد نگم تا این ولایت رو باید درک کنید اینو باید به تصویر بکشید و تصویر آیه اصلا میگه ما می تصویر برای اشای فرهنگ اهل بیت است میگیم صد البته چون حضرت سلیمان این کارو حضرت سلیمان مگه تمثال نساخته داریم آیه قرآن یا نه به نظر تو میگه حضرت سلیمان مجسمه ساخت آیه حضرت سلیمان مجسمه‌ای ساخته که مردم از خدا دور میکرده پیغمبر الهی بهم میگه فن عمل عبد در موردش ذکر شده اینطور پس اینجوری نگیم میشه بله اینو به تصویر کشید. چی داشتم میگفتم اگه یادتون نهید که قسمتون نبوده میریم بحث آها باریکلا ببینید توحید یعنی این که تو در مقابل امر خدا چقدر مقابل میکنی یه نفر بچهش میگه بگو بابا چی میگه چی میگه بابا دیگه مامان که نمیگه فکر میکنی چیز پیچیده ای نیستش من دارم ناامید میشم خب بگو بابا میگه چی بابا اما یه فرزندی بود اینجوری فرزندی بهش گفت بگو بابا گفت بگو بابا آره این بود آقا رسول الله گفت قل هو الله احد گفت قل هو الله وحد. محمد این وسط نیست هر حرف خداست توحید یعنی این. یکی شدن فلزه میشه محمد امین و جبریل هم که اومد به آقا رسول الله گفت قول او هم میشه جبریل امین هر دو امین شما به دستت میگین وردار فکر میکنه یه تیری میخواد بیاد سمت چشتون دستتون میرده فکر میکنه خودش اصلا فکر میکنه جز از این سیستم اما وقتی به من گفت بگو بابا بگم خب به من گفته پس من باید بگم تمام شما مده وسط این میشه کفران وقتی کافر شدی به بخشی از ولایت یعنی یه چیزی اومدی شریک کردی اسمش چی؟ شرک و وقتی عدای ولایت مداری و توحید در میری چی؟ منافق فلذا شرک و کفر و نفاق یه چیز همانطور که نور ولایت و توحید یه چیزه همش یه چیزه شما یه چیز داغی میخوای برداری این انگشت تو نمیفرستی درسته؟ میدونی توانشو نداره اینو میفرستی هر که در این بعض مقربتر است بلا بیشترش میدهند چون این جمبه نداره اون چیز داغی که برداری برداریم این زمین. فلذا مصیبت برای بزرگان تقرب الله هست مثل کی؟ عبا عبدالله حضرت زینه اون مصیبتی که بر عبا عبدالله آمد و از حضرت زینه آمد اگه بر منو تو می آمد چی می شدیم؟ کافر میشدیم. کفرمون رو فلزا رکبتون بگم من و شما هممون کافر و منافق و مشرک منتها میزانمون چیه؟ فرق میکنه. کنه کجاها رو میشه؟ شه؟ هنگام ابتلا بلا گوه الستو برب بکن قالو؟ بله خدا فرمود بله و بلا سر بلا این قرار دراد و هرچی این بلا بیشتر میشه اینا شکرشون بیشتر میشه آقا امام زمان قربونش برم خیلی قشنگ این عبارت رو میفرماد میفرماد قلب ما ظرف مشیت خداست. وقتی میخواهد ما میخواهیم میشه نخواهیم ببین سیم میکروفون باید باشی فقط انتقال من این لیوان برمیدارم از این حوز آب میرزم توی این حوز تونتون. خیلی تونتون اینا تکرار کنم این لیوان میشه چی؟ لوله بخشی از سیستم انتقال باش خودت قالب نداشته باش خودت شکل نداشته باش خودت ظرف نباش اگر ظرف نبودی پر آبی همیشه آب در جریان لوله همه ی حرف حرفی که امام میزد در مورد تویید این تفکیکی رو نمیفهمیدن این بود شو حرف خود خدا خود خود خود رازی حضرت مسیح بالای سلیب چی میگه؟ را. ایل ایل لیما شبختنی اواره که حضرت مسیح میگه توی انجیلم هست حالا وقت نیمه اینم پایین انجیلم دارم براتون باز میکرد. ببین خدای خدای چرا ما رو زایی کردی تنها گذاشتی؟ لیما شبختنی از همینجا می‌فهمیدین حضرت مسیح بگید نبوده یهودی اسکاریوتی بوده بدبختو خرش کردن ناختنش جلو گفتن خدا با ما یهودیان است این آدم شیاده رفتید رو به صلیبم کشیده شد واقعا ایل ایل ما شبختنی ما هایی که باشون مناظره میکنم میگم این چه پیغمبری که خدای خدایا تو تنها گوزوش نمردی که قرار نبود اینجوری بشه بعد مگر حضرت خدا نبود من نفهم یه شیرتوشی رو هم, هم بچه خدا بعد خدایی که میزن خودش رو میکشه بعد شاکی از دست خودش هاو، هاو حالا این قیاس بکنه با ابا عبدالله که در گودال میگه رزی تو به چی میخوای ظرف مشیت تلایی خواست دی بچه شش ماه هست حرف نداره اونا هم در ابا عبدالله حل شده بودن و علال ارواح هلتی حلت به فنائک همشون حل در ابا فلزا امام زمان یه عبارت بسیار سنگین داره که تن آدم میلرزه. میفرماد که به ابی انتم و امی با امیش کاری ندارم میگه به ابی انتم ابی کیه یعنی امام حسن هست یعنی امام حسن انتم یعنی چی شماها بیگه پدر و مادرم به فدای شماها شهده هایی کرده خیلی عجیبا شماها اینجا یکیه و علال ارواح حلتی حلت ایکه، ایکه، ایکه، ایکه. یعنی اونجا مذکر که میخوام یعنی کاف همه شدن یکی شما دستم کاغذی بذار نمک بریز روش رد نمیشه آبو بریزت دست کاغذی رد میشه نمک رو تو آب حل کن دستم کاغذی رد میشه نمک وجود در زلال فقط اهل بغت میتوان عبور داد اصلا تنها راه رسیدن به بهشت است تو یه حرفی داره خیلی قشنگه قرآنی خیلی جالبه. جونور خدا مکالمهاشو برا ما آورده این جونور رو برای که ما درسی بگیریم دیگه خوب انایت داشته بشید. سلام. آه. خوب انایت داشته بشید. چی میگه شیطون؟ شیطون خدا رو را... خ... شیطون توحید رو قبول داری یا نه؟ خدا یکی. بعد بخواهی این اخواف همونه من, من تازه خودم خیلی خدا میترسم. تازه به قول این شتریات این یه... غزالی گفت و این عمدانی گفتن میگن به شیطان میگن ببخش دوزمان امام الموحدین به شیطان میگن ها میگن خدا به شیطان گفت به غیر من سجده کن گفت خدای من به غیر تو سجده نمی کنم گفت من میگم سجده گفت نمیفهمی من به غیر تو نمیتونم به کسی سجده کنم من موحدم بعد توحید داره شیطان مثلا نه این توحید نیست توحید علامتون توضیح دادم که وقتی میخواد میخواد دو معاد قبول داره یا نه آره با خودش میگه یه عامل قیامه ما هم قب... قبول توییدم قبول با پس چیه؟ این دوتا چیز قبول نداره. یک خدا را عادل نمیدونه گفت رب فهم ما اقوی تو من گمراه کردی خدایا تو جلی رشد منو گرفتی یک دو انسان برتر و خلیفت الله و قبول امامت خیلی عجیبه شما در مذهب شریفه خودمون می‌بینید ما دقیقا همین دو رو آوردیم تو مذهب شیعه این همه صفات پسندیده در خدا ما فقط عدالت رو آوردیم چی میخوایم بگیم و اونجا میگه و ابا و سکر کانمنل کافرین کان بود از کافرا یعنی کافرای دیگه هم بودن این یک اونو. این کفران نعمت ولایت که برخی از مفسرین گفتن سار منال کافرین از کافران شد میگم باشه ای ندره از کافر شد که اولی است از کدوم کافران شد. کافر شد بعد میشد کان کافر نه که کان منال کافرین جمع شد از شو کافر شد آقا سشنه که کافر شد قبول اما اینو نمیگه که اولا نمیگه شد میگه بود آره این آقا این به زور میچاپوننش میکنه نش شد میشد ساره اگه میخواست بگه ما با خدا بعد از تو حرف خدا حرف میذاره خدا متوجه نبود بعد اینجوری استفاده میگره حالا قبول شد میپذیریم باید بگه کانه کافر کافر شد کانه منال کافرین شد از کافرها یعنی کافره دیگه هستن اون کافرها که هم موقع عرضه ولایتی که میگه مسیر عبودیت اینه مکالمه شیطان با خدا را روایت ما آورده شیطان میاد به خدا میگه خدایا من دو کلمه عرف استاب دارم بیخیال این سجده ده ثانی چونان بپرستمت که احدی تا تو رو نفرسیده باشه از این بیشتر پاسخ خدا خیلی زیباش خداوند متعال میفرماں انما انا اريد ان اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد من اونجوری که خودم میخوام پرستیده بشن اونجوری که تو میخوای شرط عبودیت چیه میگه من تعیین کنم نه که تو تعیین کنی بشر میگه من تعیین کنم چه تو به تو برسم خدا میگه نه خیر من تعیین میکنم فلاز و پیغمبرم من میفرستم امامارم من میفرستم به ابراهیم میگه انی جایل کل ناز اماما تازه امام شدیم منم تو رو امام گذاشتم که تو همینجا هم چون بقره سی و گفتم اینم میگم که ماجرا تموم بشه و تموم برای امروز بس و به مگه قرار گفت بله بگید بلا خوب از دو دچار بلاش دوچاره آزمایش بد بشه ابراهیمم باید مثل یک انگشت سمت بگه ببر من بهت میگم سر ببر پاره جگرشه چند سالش حضرت ابراهیم هشتاد و سه سال بوده اسماعیل به دنیا ومده سیزده سال گذشته ومده به پسرش سر بزن یعنی هشتاد نه سالشه 90 دیگه عملا خب بعد میرسه ت و نه سالشه تو ست سالگی یک سال بعد اسحاق بدنه یعنی تک به سر هنو اسحاقم هم به دنیا نیمده گمانش هم اینه که سارک از پیر شده هیچ بچه دیگه ام نداره ابراهیم نبی شده مرسل شده اولول ازم شده خلیل الله با این بالا. تازه بعد گفت برو با چی مورد ابتلا قرار داد حضرت ابراهیم رو باید ابتلا ابراهیم رب به باز دوباره بگید یک کلمات با پنجتن ابراهیم. آزمون سر اسماعیل اسمال چه رفتی پنجتن داره پنجتن چجوری قرار به دنیا بیان از نسل که هم حضرت ابراهیم گفت گرفتی ما رو خدایا من نمیگم نسل اینا. گفت من بدمیگم سر رو حالا سخت شد نه که تقدیم فرزند در راه خدا آزمون حضرت ابراهیم بوده باشه این همه مادر شهیدی که ما داریم آزمون بزرگی پس دادن اما پس باید بگیم مقامشن از حضرت رویم بالاتر بوده چه پسری رو سر ببرم؟ ببین پسر دیگه ای نداره احتمال اینکه که بچه دار بشم دیگه بگید نیست 99 سالشه گفت سر ببر گفت چش این خوشگل شد وقتی سر برید خوب دقت کن نبورید چاقو نبود هی hey, امتحان کرد نبود آیه قرآن داریم و فدایناها به زبحن عظیم ما به یه ذبح بزرگی جابجا کردیم فدایناها که فداش کردیم ما عربی بلد نیستیم جابجا کردن فدی یعنی همین اینو با اون یکی جابجا کردن اصلا فدا شدن هم از همین انگلیسی گرفته میشه که میخوام اینو بزنیم اینو میفدا اون یکی میکنه فدیه یعنی جا. میگه ما جابجاش کردیم با ذبح بزرگ بعد میگن یه گوسفندی خدا فرستاد واقعا توهین به حضرت اسمایل اگر بگیم مراد از زبه عظیم یعنی چی؟ این گسفند که تو هم داریم که او عظیم مراد چیه؟ ولی که از زرریه ابراهیم خواهد آمد از زرریه همین اسمایل وقتی سربوریده ن... این امتحانات سالم سالم بررفت آ... خدا مطور فهمه آل اینی جاعل کل ناسه بگید اماما ابراهیم تازه امام شدی مبارکت باشه. کرد فرمود قالب و من ذریتی آقا بگو ببینم ذریام چی چی شد پس میفهم مقام امامت از اینجا بر مقام پیامبری هم چیه ولو پیامبری از و رو خلیل الله و کریم اللهی هم بالاتر است ما با آقا رسول الله میگیم امام الرحمه به امام شیعه میگیم امام صادق امامت رسول الله نفهمید امت اسلامی امامت رسول الله نفهمید فرق امام و پیامبر تو اینه که امام لناس پیامبر لقومه میفهمیدین چی پیامبر برای یه قوم میاد اما امام برای همه مردم میاد میگه انی جاا که لناس امام گو من ام این ذریهتی خدایا ذریه چی سر این بچه سر برید نه من گیج شدم بگو چی به چیه قال لا ينال عهد الظالمین گفت آره منتها بدون عهد من به ظالما بگید یعنی چی؟ یعنی امامت همان عهد الهی است. اهد ام الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لكم عدو مبین ان اعبدونی هاذا صراط مستقیم. عهد الهی از اول اهد بسته بود که شما ولایت اهلیت بیت و تو و تو اینجا دقت کنید و تو ذریه توی ابراهیم آدم ظالمان بگید. ابوجهلم بچه حضرت ابراهیم. از شاخه اسماعیل ام اس جعفر کذابم از شاخه حضرت اسماعیله این نبوده محمد نفس زکیه که علیه امام صادق ادعای مهدویت کرد عبدالله محض پدر او همه اینا باطلن اون شجره طیبه شاخه هایی که اضافه میزد بیرون خدا همون شاخه را در نظر داشت و مردم هی حسادت میکردند و میگه اهد نائلا ابراهیم و اسماعیلا یه اهد از طریق اسماعیل دام پیدا کرد آیه به وضوح ما من اینا رو تو تورات هم گشتم رفتم پیدا کردم منم بتو نشون بدم خوبه خسته که نشدید امام شاهکار خدا شد ما یه شب تا صبح این سایت رو آفلاین دانلود کردیم سایت برادره خوخامه بعد من تو رو تو ابری میخونم بعد اینکه کلا سرم نره چون اینا پدر سوختگی هایی کردن تو ترجمه در حد بنز داره به حضرت ابراهیم میگه خدا براتون الان چون ابری بلدید من یه ترجمه نمی کنم کتاب پیدایش باب 17 آیه 20 یو لیشمایل در باره اسماعیل ل اسماعیل اشماعیل خدا شنید اسماعیل سمع تو تو را شنیدم عربیش میشه چی؟ سمع تو که عربی و عبری خیلی به هم گفتم بلدید این نه حواستو جمع کن برختی برکتم را نیازی به ترجمه نبوده میره اینجا عطه عطه یعنی چی؟ یعنی فقط در مورد او در خصوص او یعنی برکتم را فقط برای میخوام بدم ابراهیم ترجمه نکنه. and will make. فقط او ترجمه نشد. تیره و خیلی کثیر خواهد شد. خیلی زیاد خواهد شد. اون کسرتی که به توی ابراهیم قول دادم توی اسمایل میگذارم. در وجود اسماعیل یک کسرت به یک بار این شجره میشه کفه به میوه دادن میرسه. انا اعطینا این سوره تمام کرد ماجرا. آقا رسول الله فرمود من تنه این شجرم و دخترم زهرا شاخه آن علی درختی که میوه نمیده چکا علی پیوند آن و حسنین میوه آن من و تو چی؟ برگ آن چه درختی رو مردم میرن قطع میکنن؟ درختی که خشک باشد اگه کجا میفهم خوشکه؟ دقیقا زمانی به اهل به این شجره طیبه حمله شد که برگ نداشت چقدر حاضرین برگ بیرونیه باشیم که باد میخوره بارون میخوره در عوض درشته برگ کرم خورده به درد نمیخوره مایه آبرویزی درخته کونولنا و لنا زینا ولا تکون و لنا شینا مایه آبروریزی ما نباشید شما به ما مرتبطید و او را کسیر خواهم کرد چگونه؟ به معد, معد. به معد که معد ابجدش 92 با محمد دقیقاً یکیه خب به واسطه محمد اینجا رو نگاه کنید سانی عشر ناسیم و دوازده مقام حاکم بر کل ناسی ناسی یعنی چی؟ کل انسان ها که میگه 12 پرنسس و دوازده امامی که بعد از معد, معد میان که اومده شاهزاده ترجمه کرد که اصلا مالخ میشه پادشاه ملک به ابری خب این میگه پرنسس شال بیکام چه کرده شال بیکام شما میتونید اینجا فونتیکش که میتونید بخونید یولت یولت این چی او متولد میشن بارک الله میگه از نسلشان ناتاو لاگوف گادول اگریت نیشن ویل میک ا نیشن یک امت عظیم از او به وجود خواهد آمد اینا میگن این هم اینه قشنگ عین everthing and as for ismail i have heard but injo gasham tavzih دوازده شاهزاده ای که پس از این دوازده امام این ستاره ای که الان تو انجیل براتون من توضیح دادم اصلا همه چی برای ما تو وجود اینایی اما اون آیه قرآن که گفتم ناس. مردم یه ده حسود میکنن ما شیعایون افتخار می‌کنن به مؤمن اهل بیت حالا چه شیعه چه سنی افتخار می‌کنن که چی ما جاروکش ایدریه ای خونییم ای. چون بابامون اینجوری بود حضرت سلمان وقتی حضرت رسول منو بهله و احل سنت میگن رف برای مباهله یه درختی رسید اباشو داد گفت ببر بنز روی درخت ما می‌خوایم بریم اون زیر ابا رو که داد بذار سلمان گوی زیرش هم جارو بزن ژنتیکی شد در ما و افتخار میکنیم دقیقت کنید ها باید برن زیر عبا زیر پوشش وقتی انسان تمع کرد به شجر اهل بید اولین کار که خدا کرد چی کرد؟ از زیر پوششت آوردشون بیرون ست رو ازشون گرفت. گفت بیار بیرون پنجتنه آل عبا آل کسا که خود کسوه در قرآن پنج مرتبه تکرار شده فقط خیلی عبارت عجیبه حالا کجا می فهمین نا من چی پیدا کردم که دهن تم یا اینه نمی که این نرم افزاد آن تا مقدس گفتم چند چند دو ستا شیشتا بیستو و شیش خب حضرت ابراهیم اینجا آخر حضرت سال فوت شده صد و, و سالشه نخو حضرت چیزه ساره 127 سالش فوت شده و ساره در قریه اربک که هبرون ام... یعنی امروز میگه باشه <تصفيق> جالبه. که هبرون باشه یعنی امروزش هم گفته کتاب تحریف از این واضح‌تر که معلوم امروزش هم گفته یعنی جالب مثلا اه، اه، اه، توی این توی کتابات تورات اینجا میگه و ابراهیم در اور کلدانیان به دنیا آمد. کلدان مال 2500 سال پیشه حضرت ابراهیم کی بوده 4000 سال پیش مثلا فرض کن اینجوری بگه که بگه به حضرت مثلا راعی در تهران پایتخت ایران به دنیا آمد بعد اینو متن نسبت بده به کی؟ به هزار سال پیش. یه بابا تهران همین قاجارها اومدن. یه حضرت راعی بی غلط کرده اینجا به دنیا آمد آره. مرد و ابراهیم آمد برای ساره ماتم و گریه کند و ابراهیم از نزد میت خود برداشت و بنی حتا را خطاب کرد، حوتی هم میگن. گفت من نزد شما غریب و نزیل هستم، قبری از نزد خود به من بده. گفتش آقا من که غریبم اینجا. راست میگه حضرت ابراهیم بچه‌ی اور دیگه. اور محل تلاقی دجله و فرات ابراهیم معادل فارسیش پرهامه که ما هم داریم. و این پیامبر بزرگ تو فرهنگ ایرانی ها هم بوده، یعنی وجودشون کاملا اثبات شده است. ما ایرانی که پرهام، پ ب هم ابراهیم که اصلا تو لغت‌نامه‌ام نگاه کنید میگه پرهام نام یک از پیامبران. ملکت من تا خود را پیش روی خودم گفت بابا یه جا به من بدیدیم تمدف رو دفت کنم پس منی حتی در جواب ابراهیم گفتن ای مولای من قبولش دارن سخن ما را بشنو تو در میان ما رئیس خدا هستی اوه اوه چی شد رئیس خدای بریم بیانی عبارت عبریش چی سمعنو اما بشنو ادونای ناسی ای امام خدای ما دقیقا میبینیم لفظی رو برای حضرت ابراهیم استفاده کرد برای او دوازده تا استفاده کرد ناسی و اینور گفتیم النی جاعل وک لن ناسه امام ما مقام امامت بر کل ناس است اما پیامبرا میدید دو تا پیغمبر کنار اینا رو هرکون برای یه قوم بود حضرت ابراهیم خودش قبلی که به مقام امامت برسه لود کنارش برای یا قوم دیگه حضرت موسی حضرت شعیب پیامبران همزمان زیاد داشتیم این جوال که لناسی ادو نای نسی ولی الله خلیفت الله امام خدا چون امام الان اسرائیل به رئیس جمهور چی میگن؟ به ابری میگن ناسی چرا؟ چون رئیس بر کل مردمه مهم نیست ما همه مردم انتخابش بکنن اشتباه نکنید ببین، پنج و یک بهش رأی بدن اما او رئیس جمهور الان همه بگید هست چه بخانش چه نخانش اینا اومدن زبان عبری رو زندهش کردن یه سری الفاظ استفاده کردن مثلا لفظ ناسیوس یعنی مردمی کسی که رئیس مردم باشه بهش میگن ناسی که ناشی هم میگن چون سه و شه خیلی در ابری به هم تبدیل میشه الان این رئیس امور اسرائیل که ناشی واقعا این رئیس امور جدیدشون فارس خوب ببینید با این با این که خوش لیکودیه با این مردی که خیلی هم مشکل داره ریویلین یه آدمیه که نظراتش دقیقاً برعکسه نتانیو قطعا به مشکل برخواهن خب ما اونطور ما تو کشور بلد نیستیم بار هم من ببین آقای گفتم همین امروز اینجا جلسه داشتیم با یه آقای گردن کلفت گفتم آقا بیایید تو رو خدا پول بذارید برای خودتون ما یه شبکه ابریوان بزنیم از این فارسیوان من یه بابایی از اینا در بیارم بیام این اختلافاتشون رو بگیم همینا رو بیام بهشون بگیم همینا همین رو همین که الان من گفتم بگیم بابا پیدا شد بیا او 12 تا امام که می‌خواستید اینجاست ببینم کی می‌تونه جواب بده مونتو همش نشاستیم اونا حمله کنن وایسیم نگاه کنن موشک جواب موشک امیرالمؤمن در مقابل صیوف دشمن از چی بهترین صیوف استفاده کرد ذوالفقار امروز حمله نرم ما بود بزنیم، ما شبکی بزنیم شبکه انجیوی بزنیم مثلا رفتیم به جمهوری اسلامی نشه بشه بیان مثلا المیادین مثلا جای دیگه بیان ردیف کنن یه جای دیگه بیان بزنن همین خواخامه ناتوری کارتا هستن هاشمن ایران میرن و احمدی نژاد جلسه داشتن ها زد سین مثلا اینا رو برد و برای اونا این حجتای ما هن. اونا میگن که یهود قبل از ذور حق تشکیل حکومت نداره. چه جوری با حجت امامیا در ارتباط میگیره یهودیا؟ صهیونیست استفاده میکنه. ما نمیشه ما استفاده کنیم. بیارشون اینقدر بدشون میاد از صهیونیستا که بر... اصلا پولم نمیخوان. میان میشینن فقط یه روز برنامه مذهبی بذار مخشونو بزن این جهودا هم فقط بد بترسونشون. قرآن گفته. اینا بترسون کوب میکنن میرم. یه چیز هم بتونشون از سلیمان تا اینجا اومدم حیفا میدم بتوننگیم. خدا گفت در 33 نسل ابراهیم اون اتفاق خواهد افتاد همین عدد 33 و اینو مقدس شد ببین چه 33ی که برای یهودی ها مقدسه چه 33ی که برای مسیحی ها مقدسه مسیحی میگن حضرت ایسا 33 سالگی دوباره برمیگرده که کسرت رو زمین شک بگیره بعد فکر میکنند مثلا الان هم توی کابالای اینا مونده دیگه 33 عدد مقدس بودن ابراهیم اسماییل یک دو سه چهار پنج شیش هفت هش نه ده. با خود ابراهیم تا این یازده تا تا عدنان. از اسمشون یازده. دوازده سیزده چهارده پونزده شونزده هفده یجده نوزده بیست بیست و یک از اینجا بدنگان قرش بیست و دو بیست و سه بیست و چهار بیست و پنج بیست و بیست و هفت بیست و هش بیست و سی سی و یک و سی در سی و, سی و, سی و نسل ابراهیم گفت کسرت چک میگیره بعد از سی میشه چند؟ کیه؟ اناعت های ناکل که بسار. خب و حتی اگر حضرت ابروهیم حساب نکنیم اون میشه اهل ای که این شجره گسترش بده که. اینا میفهمیدن. ما کتاب دیگرشون هم نام احلوی تو من پیدا کردم. یه وقتی گذاشتم من 20-25 نفر ابری به شون یاد دادم. رفتم استاد پیدا کردم و این اینو بعد وقتشون ترجمه میکردن برای این ادارات و جای مختلف پول ای ترجمه اینا رو نمی‌دادن بعد همینا پرت و پلا شدن یکیشون رفت صدوسیما ایشورا کجا اینا هرکدون جذب یه جایی شدن این اصلا کاراکا پوش یعنی کار پژوهشی خیلی خوب داشت انجام می‌شد روی کتب دینی اینا متاسفانه تو کشور ما زیاد ارزش قائل نیستن برای این جور چیزا یعنی اصلا یه بخشیش هم شاید متوجه نمیشن، نمیدونه این کتاب غزل غزل‌های سلیمان با 5 16 خب دیگه چون ابریتون خوب شد دیگه بخونید. حکا hey حضرت ابراهیم حضرت سلیمان میگه حکا وم تکیم دهان او شیره به دختره اورشلیم میگه میگه برید تو گاراژ بابا. خب چی چی میگید شما؟ هم آخرش میگه بناد اورشلیم نگاه کن بناد اورشلیم دختره اورشلیم داتورز اورشلیم برید فکرتون هی از مای فرند او رفیق منه. او یار منه. کیو میگه؟ او کلو بخونید. محمدیم خب حتا نام مبارک بوده همین لفظو بگیرید ببره بذار تو گوگل ترنسلیت نگاه کنید میذاره حمر ترجمه میکنه جز چی اینو چرا نمیتونه ترجمه کنه این ایم مثل ناسی ایم ایم یعنی نشانه جمعه مثل الوهیم هم این جمع عددی هم جمع احترامه خب به خودم الوه و الوهیم هر دوتاش میشه خدا نگاه کنید این مربع است میبینی نگاه کن نم. محمدیمه قشنگ میبینید نمیتونه ترجمه کنه بعد اینجا نگه کن این الله اون یه دونه خد یه هم بیاد بازم میشه خداون فرق نمیکن الوهیم بازم خدا یعنی خدا بزرگ مثلا یه چیتون هایه اللهمه مثلا من بین این رو یه دونه اسپیس دادم. این من میشه نشانه چی؟ جمع دیگه این چی شد؟ محمد قشنگ نشونه جم ها گرفت یعنی آمده و این محمد هم بهتون بگم محمد دوم رو داره میگه به نظر بنده محمد آخری. که نو منتظرشن اره میشناسنش این نقد 2000 نقد ورد وورزد منو حتما نگاه کنید که اونجا در مورد 12 امام که اینو صحبت میکنن و بحث میکنن که اصلا 12 امامی داره میاد فاکس نیوز برنامه گذاشت برنامه واقعی یا نقد سیاسی در مورد جریاناتی که در منطقه شده میگه تو 12 امام تو راهه فلزا دارن خوبم میدونن این دعوا ببین دعوای شیعه و یهوده بقیه بهانن دعوای ولایت اهل بیت و ولایت انسانها و شیاطین جنی و انسی کلا که حسادت کردن بر آن ولایت آخره کنم کنیم ماهاییم داره یه اسرائیل ادعای حکومت جهانی داره اون یکم که مای <تصفيق> یعنی حقیقته ما به فقه همون رجوع کردیم، حکومت تشکیل دادیم، اونا هم به دینشون رجوع کردن. در دین یهود اینو بهتون بعضی میگن پچون سکولارن. در دین یهود هیچ پیغمبر، هیچ حاکم دینی وجود ندارد به خاطر حضرت داوود از سلیمان تو یهود پیغمبر نیستن، کینگن، پادشان. کینگ شلامن، کینگ داوید. کینگ, کینگ سلیمان. باید کنارشون یه خاخام مشاور باشه.